از نوروز تا نوروز، با آینها و مراسم سنتی پژوهش پجوهش منگارش، کروش نیکنام، ویرویش و موسیقی، قاسم قرداغی، کاری مشارک از مجله اینترنتی آقای بوف و تولید کتابهای صوتی پرشنگ، تولید زمستان 1396، با تشکر فراوان از جناب آقای قاسم قردقی مدیر محترم آوای بوف گویندگان به ترتیب اجرا پردست بیدادیان ساجه زواره مشکان رضایی، رویا فهیمی، مینا نیکفال آذر، مریم گلستانی اکرم دودانگه سارا واحدی رکسانا بازارگرد و رها طالقانی به امید سالی نیکو و پر از نشات خورسندی و برکت برای تمام ایرانیان عزیز در سر تا سر جهان با همکاری آبای و پرشنگ پرشنگ و آبای بوف و آینها ها و مراسم سنتی و از جمله آینها ها و مراسم گروه های قومی و مذهبی ایران به عنوان یک شاخه مهم میراث فرهنگی در برنامه های گروه مردمشناسی آیینی پژوهشکده مردمشناسی قرار گرفته است. کتاب حاضر بر اساس پژوهشی است که آقای کوروش نیکنام در چارچوب های مصوب سال 1374 پژوهش مردمشناسی سازمان میراث فرهنگی درباره آینها و مراسم سنتی زرتشتیان ایران انجام دادند این پژوهش با روش تقیمی انجام گرفته و شامل کلیه آداب و مراسمی است که در طول یک سال خورشیدی معمول می باشد. و از آغاز فروردین تا پایان اسفند ماه نوروز تا نوروز را شامل می شود. محمد میر شکرابی پجوشکده مردم شناسی 1379 زرتوشتیان ایران را به دلیل زمین بارور، آب فراوان و هوای سازگار همیشه دوست دارند و آن را یکی از سرزمین های خدای خود اهورا را مزدا میدانند و به همین انگیزه آبادی و سرافرازی ایران زمین برای آنها آرزوی افتخارانگیز است آداب و رسوم ایرانیان که از هزارهای دور و با گذشت زمان در این سرزمین شکل گرفته است و بخشی از فرهنگ کنونی ملت ایران را به وجود آورده است از زمره زیبا رفتارهای گروهی انسانها در جهان به شمار میگن یکی از انگیزه های اصلی پایداری فرهنگ و تمدن ایران و علت پویای آن همسویی و هماهنگی با رشته گوناگون علم و ادب و اخلاق و اندیشه در راستای زمان است ایرانیان مانند برخی از اقوام باستانی جهان تنها در یک رشته سرآمد دیگران نبودند بلکه در میدان هنر، فرهنگ، ادب، فلسفه، ارفان، دانش، نوآوری و سایر علوم و فانون در درازای تاریخ پر افتخار خیش کم مانند و گاه بی همتا بودند. از خط و نقاشی و موسیقی و معماری و کشاورزی و علوم و ادبیات گرفته تا هنرهای دستی و قالیبافی و آشپزی و گلداری و پرورش گل و گیاه و آداب و رسوم ملی و دینی و چگونگی آداب معاشرت و گذشتها و از خودگذشتگیها ایران و ایرانی را در جهان نامآور، پرآوازه و سربلند شناسانده است. پژوهش در میراث فرهنگی و آداب و رسوم اقوام گوناگون ایرانی از این رو با ارزش است که آشنا شدن با این یادگارها دانش و بینش انسان را نسبت به فرهنگ نیاکان خود و چگونگی نگرش آنان به جهان هستی و نیز شیوه زندگی فردی و اجتماعی آنان افزایش می‌دهد. آنگاه هر ایرانی با این شناخت نو و آگاهی و بینش تازه بهتر می‌تواند پایه های آرمانی خود را بر ارزش های فرهنگی و انسانی نیاکان خود به عنوان یک ایرانی آزاده و سرفراز در جهان اسوار سازد. زندگی انسان ها حرکت در پر پرفراز و فرود تاریخ در زمان زندگی خود است. به همین دلیل، هیچ کس نمیتواند در هیچ زمانی بینیاز از ارزش های فرهنگی گذشته خود باشد. گنجینه پربار از دانش، بینش، اخلاق، آداب و رسوم، تلاش برای زندگی کردن با افتخار، با تجربه های تلخ و شیرین، در زندگی گذشتگان ما پشتوانی ارزشمندی برای سامان بخشیدن به زندگی نسل های کنونی و آینده است. هر ایرانی، باید با نگرش به تلاش و کوششی که گذشتگان ما برای پاسداری از فرهنگ شکوهمند این سرزمین مقدس داشته‌اند و اینکه چگونه برای نگهداری و پویایی این فرهنگ ارزشمند بشری فشارها و رنجهای جانسوز را تحمل کردند، بهتر و استوارتر می‌تواند آینده درخشان خود را بر ارزشهای فرهنگی ایرانی پیریزی کند. و در برابر یورش فرهنگی بیگانگان ایستادگی کند و سر سازش و تسلیم فرود نیاورد. در این صورت است که هر ایرانی از روی خرد و آگاهی به جلوه های فرهنگی خود افتخار خواهد کرد و به قول مولوی روزگار وصل خویش را باز خواهد جست. در این پژوهش کوشش کرده ام تا شگونگی آداب و رسوم زرتشتیان ایران را تا سرحد امکان گردآوری نمایم امید است خوانندگان و پژوهشگران ارجمند با یاداوری ها و کاستی ها نگارنده را جهت بهسازی نوشتار یاری و سپاسگزار نمایند پیش از این از همه آزاد زنان و آزاد مردانی که در شهرها و روستاها در گردآوری این مجموعه مرا یاری نمودند سپاسگزاری می‌نمایم از همکاری پژوهشگر گرامی آقای عبدالعزیم پویا کارشناس امور فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی استان یزد در تنظیم این بشتار و از محبت آقای دینیار شهزادی کارشناس مسئول واحد پژوهش مدیریت میراس فرهنگی استان یزد و استاد فرزانه روانشاد خداداد خنجری پژوهشگر فرهنگ ایران زمین وظن سپاسگزارم یاداوری مینمایم که شرح هر یک از مراسم سنتی به گونه‌ای تنظیم شده است که همراه با گذشت یک سال خورشیدی درگاه شماری زرتشتیان هماهنگی دارد. و از آغاز سال نو و جشن نوروز شروع می‌شود و به جشن نوروز سال بعد پایان می‌پذیرد. کوروش نام 1374 تا نوروز پژوهش فنگارش کروش نیخنام کاری مشارک از مجله اینترنتی آقای بوف و تولید کتاب های صوتی پرشنگ با همهاری آقای بوف و پرشنگ پرشنگ بوک دات کام و آقای بوف دات کام کیش گفتار آداب و رسوم هر ملت گنجینه ی پر ارزشی است از فرهنگ، پنر و اخلاق مردم یک مرز و بوم که به مرور زمان شک یافته و از گذشته‌های دور تا به امروز رسیده است و چنانچه به درستی از نسلی به نسل دیگر نرسد از بین خواهد رفت یا اینکه در معرض هجوم فرهنگ‌های بیگانه دستخش، دگرگونی های جبران ناپذیر خواهد شد فرهنگ درخشان و پر ایران زمین نیز که تداوم فرهنگ پربار و دیرینه ای این سرزمین که است هست ای از هنر آداب رفتار سنت ها و به طور کلی دانش و بینش نیاکان فرزانه ما است که از زمان دور کنون به تدریج فراهم گشته است. آین زرتشت که برخواست از درون فرهنگ دیرینه این قوم که سال است، نقش برجستهی در شکل دادن سنت ها و آداب و رسوم ایرانی داشته است. از زمانی که زرتشت پیامبر ایرانی، ایرانیان را به یک تا پرستی فراخان، کایه های اخلاق درست انسانی در آداب و رسوم و سنت های ایرانیان بنیان نهاده شد. و پس از آن با وجود نبودن امکانات آموزشی پیشرفته، سنت های اخلاقی و ارزشهای نیک اجتماعی و آداب و رسوم سازنده ملی و دینی تداومی جاودانه یا زاکشیان به عنوان جمعی از ملت بزرگ ایران در کنار سایر ادیان به دلیل اینکه زمان بیشتری در این سرزمین زندگی کردند، بار بیشتری از فرهنگ کهن این مرز را در طول تاریخ به دوش کشیدند. و با سربلندی به امروز رساندند گرچه همکنون زرتشتیان ایران به غیر از استانیاز در شهرهای تهران، کرمان، شیراز، اصفهان، کرج، زاهدان، احواز و شهرهای دیگر ساکن هستند، اما زرتشتیان ساکن در شهر روستاهایی از به دلیل شرایط ویژه جغرافیایی و اقلیمی سهم بیشتری در نگاهداری و پاسداری از ارزش های فرهنگی و آداب و رسوم نیاکان خود دارند. زرخشتیان استان است اکنون غیر از سکونت در مرکز شهر و روستاهای گرداگرد آن که برخی از آنها اکنون به شهر پیوستن در شهرستان تخت و روستاهایی از شهرستانهای اردکان و میبد زندگی می کنن از آغاز زندگی خود در شهر یز در پیه به دست آوردن آب از دل کویر تلاش و کوشش نمودند و با انتخاب شغل کشاورزی، آبادانی و سرسبزی را در جای جای شهر خود گسترش دادند. هرچند بسیاری از فرزندان آنها اکنون به مناسبت شرایط جدید زندگی شهرنشینی در شغل‌های دیگری غیر از کشاورزی فعالیت می‌کنند، ولی آنها نیست به کشاورزی و طبیعت عشق می‌ورزند و به زادگاه خود دلبستگی و علاقه فراوان دارند. به گونه‌ای که هنوز هم در هر جای ایران ساکن باشند برای برپاداشتن جشن‌ها و آداب و رسوم سنتی که اغلب آنها به گونه‌ای ریشه در پیشه کشاورزی دارد یا شکل از های طبیعی به شهر روزایی خود در یزد می‌آیند و مراسم سنتی خیش را با شکوهی ویژه برگذار میکنند. زرکشیان ساکن در استان کرمان نیست که در حال حاضر به صورت گروهی یا پراکنده در شهرهای آن استان زندگی میکنند در گذشته ی دور سهمه بسزایی در نگاهداری و پاسداری از آداب و رسوم سنتی بدینی در محل زندگی خود داشتند. آنها اکنون غیر از زندگی در مرکز استان کرمان در شهرهای بم، سیرجان، راور و برد زندگی می کنند و با در باداشتن جشنها و آداب و رسوم سنتی خود حوشا هستند. زرفشتیان ساکن در استانهای دیگر ایران خانواده هستند که در صده های گذشته از یزد و کرمان به این شهرها مهاجرت کردند. و در آنجا با ایجاد مراکز فرهنگی، اجتماعی و آتشگده ها مراسم دینی و سنتی خود را برپا دارن آداب رسوم سنتی زرکشتیان را با گزارش چگونگی برگزاری این جشن خجسته و با شکوه نوروز که آغاز سال ایرانیان است شروع می و به مراسم پایان سال تا نوروز پژوهش بانگارش کروش نیخنام کاری مشارک از مجله اینترنتی آبای بوف و تولید کتاب‌های صوتی پرشنگ با همکاری آبای بوف و پرشنگ پرشنگ بوک دات کام و آبای بوف و دات کام جشن نورس، نورماس و فروردیما و اول فرقنی. آغاز آواسی. ایرانیان باستان بر پای آموزش آموزش‌های پیامبرشان زرتشت بر این باورند که شادی از های نیک اهورایی و همساز با زندگی است و پیوسته بر آن بودند تا اندوه و سوگواری را از خود دور سازند. مردمانی که سالیان دراز به پیروی از آیین زرتشت به سبزه و گل و گیاه و آبادانی و پیشرفت گرایش یافته بودند و به اندیشه و گفتار و کردار نیک دلبستگی پیدا کرده بودند زندگی را با زنده دلی و شادکامی در کمال آسایش و آرامش می‌گذراندند از دروغ قش رشک کینه جنگ و به دور بودند و پایبند به راستی عشق مهر و همکاری با هم در جهت زنده نگاه داشتن و تازه گردانیدن جهان هستی دیدن. و برای اینکه از زندگی خود بهره بیشتری بگیرند جشنهایی را به انگیزههای گوناگون استوار به بابرهای ارزنده دینی و سازگار با زندگی طبیعی پیشبینی کرده بودند تا بیشتر گرد هم و روزگار را بهتر به شادی و سرور بگذرانند. منیز پروزه همازوری و همبستگی را که جان ماهی آینشان بود در جامعه توانی جافتانه بخشند. جشن نوروز از برجستهترین و با شکوترین یادگارهای ایرانیان است که سالهای زیادی را پس سر نهاده است و یکی از جشنهای بسیار کهن جهان شما بیشترین ارزش این, این رش را می در آن دانست که با پشت سرنهادن نشیب و فرازهای فراوان چون کوهی استوار ایستاده و با روح و با احساس مردم این سرزمین چنان سرشته شده است که آنها همه ساله در جرفای دل و جان و روان خود چشم راه فرارسیدن رسیدن آن هستند. و از هفته ها قبل با ایمان و علاقه به پیشوازش می‌روند بدین گونه هنگامی که گل و گیاه و سبز جان تازه می‌گیرند و جهان زنده در رشف رنگارنگ زندگی را به شادی می افرازد و فروغ عشق و امید سراسر آفرینش را فرا میگیرد و جنبش و تلاش و کوشش در همه جا و همه چیز بار دیگر جان می‌گیرد سال نو و جشن نوروز در شروع ماه فروردین با شکوه تمام آغاز می شود. پیدایش نوروز گروهی از پژوهشگران و تاریخنگاران ایرانی بر این باورند که جشن نوروز را جمشید پادشاه پیشدادی بنیان نهاده است. که در این باره دانشمندان و شاعرانی چون حکیم فردوسی توصی خیام نیشابوری و ابو ریحان بیرونی در آثار ارزشمند خود گزارش آن را به تفصیل آوردند. در ادبیات کهن منصوب به زرتشتیان آمده است که خداوند جان و گیتی را در شش هنگام یا شش چهره یا گاهن بار آفرید و هر چهره پنج روز به طول انجامید و در هر چهره یکی از پدیده های اهورا که لازمه زندگی است آفریده شد به این ترتیب که نخست آسمان، سپس آب، زمین، گیاهان، جانوران و در پایان شهره ششم که پنج روز آخر هر سال است انسان آفریده شد و با پیدایش انسان تکامل در آفرینش به مرحله تازه‌ای رسید. و از آن پس انسان اندیشمند با بهره‌گیری از شرایط مناسبی که از پیش برایش فراهم شده بود، زندگی خود را بر زمین آغاز کرد. گذشتگان اندیشمند ما به پاس ارج نهادن به پیدایش انسان، کامل‌ترین خلقت آورامضا، جشن بزرگ نوروز را با شکوهی فزاینده و فراگیر برپا داشتند. چون با آفریده شدن انسان مرحل تازه‌ای در جهان هستی آغاز گردیده بود و انسان میبایست تولد خود را به شادی جشن بگیرند و به سپاس گذاری و نیایش آفریدگار خود بپردازد. و به گونه بود که نوروز با پیوند یافتن به اعتقادات دینی ایرانیان تولبوری دیگر یافت و جاودانه و ماندگار شد. زرتوشتیان برابر نوشته های باور دارند که ده روز مانده به آغاز فروردین ماه هر سال فروهرهای در گذشتگان به زمین فرود خواهند آمد و مدت ده شبانه روز میمان فرزندان و نوادگان خود خواهند بود و در سپیده دم نخستی روز از ماه فروردین یعنی آغاز نوروز، به جایگاه مینوی خود باز خواهند گشت در فروردین یشت که یکی از بخش های ادبیات اوستایی است، آمده است فروهرهای نید، توانا و پاک مقدسی را می ستایید که پیش از هنگام هم از از جایگاه خود فرود آیند و در مدت ده شب و روز پی در پی در اینجا برای آگاهی یافتن به سر برند. بنابراین این زرتشتیان برای شادی و خوشنودی فربهرهای درگذشتگان خود که از ده روز پیش از نوروز به زمین فرود خواهند آمد، آماده استقبال و پذیرایی از آنان خواهند شد. به این ترتیب که از چند روز پیش از آن خانه و محل زندگی خود را پاک و تمیز میسازند، آتش میافروزند و کندر و چوب صندل بران می‌نهند. عطمی سوزانند و با پراکندن بوی خوش در پیرامون زیست خود مهر و دوستی را در خانواده و شهر و دیار خیش سازند تا شادی و خوشرویی فر بهر را فراهم آورند. شیوه برگزاری نوروز در بین زرتشتیان از ویژگی‌های جشن نوروز، قرار گرفتن آن در آغاز بهار و در آغاز ماه فروردین است که این ماه چنانکه گفته شد، منصوب به فروبهرهای درگذشتگان می‌باشند. بر این باور که این فروبهرها از ده روز پیش از نوروز برای دیدار بستگان خود به زمین می‌آیند و پس از سرکشی و اقامت دوباره به جایگاه خود باز میگرد به همین دلیل است که زرتشتیان از اوایل ماه اسفند، خانه و پاکسازی پیرامون زندگی خود را آغاز می کنند. پوشاک و وسایل تازه به خانه میآورند و مقدمات جشن و شادی را فراهم می سازند تا فروهرها به هنگام فرود آمدن آنها را هماهنگ با طبیعت، شاد و خرم و پاک و تازه برید و با خوشنودی و آرزوی برکت و بهروزی برای خاندان خود به سرای خیش بازگردند در شب پیش از نوروز زمانی که تاریکی آخرین شب سال در برابر سپیددم دم سال نوع رنگ میبازد با افروختن آتش بر بالای بلندی خانه ها بازگشت فرواهر از زمین را به بدرق خواهند ایستاد. و با نیایش هایشان خوشنودی آنها و باز آمدنشان در سال بعد را آرزو خواهند کرد در استقبال از نروز و تدارک نیازهای نوروزی در خانواده های زرتشتی نقش مادر مؤثرتر و نمایانتر است. از یکی دو ماه پیش برای آماده کردن پوشاک و کفش نو برای افراد خانواده به تلاش می و می تا همه اعضای خانواده به ویژه بچه ها به هنگام تحویل سال رفت های کهنه سال گذشته را به تن نداشته باشند. همه با هم با نظارت و مدیریت مادر خانه را رفت و روپ می کنند، گرد و خاک را از چهره همه ابزار و اساسی خانه می زدانند. را می شویند، ها و آجیل های نوروزی را آماده می کنند. در بیشتر خانواده ها، به ریج خانواده های روستایی درگز، مانند گذشته خوراکی های سنتی نوروز را تدارک می دید. از نوروز تا نوروز پژوهش و نگارش کروش کاری مشترک از مجله اینترنتی آبای بوف و تولید کتاب های صوتی پرشنگ با همکاری آبای بوف و پرشنگ پرشنگ بوک دات کام و آبای بوف و دات کام خوراکی های سنتی پالوده خانگی پالوده خانگی یکی از خوردنی های سنتی زرتشتیان یز در نوروز است که همه کارهای مربوط به تهیه آن در خانه انجام میگیرد از آغاز زمستان گندم را به مقدار کافی پاک می‌کنند و پس از شستن در یک ظرف بزرگ سفالی یا مسی پر از آب می‌ریزند و بیرون از ساختمان می‌گذارند تا آب روی آن به خوبی سرد بماند. به این دلیل که دانه های گندم ناتوان جوانه بزنند هر چند روز یک بار آب روی گندم ها را عوض می‌کنند. و به این ترتیب نشاسته موجود در گندم کم کم آب می‌گیرد و متورم می‌شود. پس از حدود چهل روز نشاسته درون دانه‌های گندم چنان خیس می‌خورد که با فشار انگشتان دست از پوست بیرون می‌ریزد. آنگاه آنها را با دسته های بزرگ چوبی در هاونهای سنگی میکوبند یا در چرخهای الکتریکی نرم میکنند. و پس از جدا کردن پوست دانه ها شیره سفید رنگ آن را در ظرفهای سرگشاد میریزند. برای جدا کردن نشاسته از آب پارچه کرباس سفید و تمیزی را روی شیره گندم می و خاکستر نرم و تمیز چوب را که از اجاق یا تنور خانه برمیدارند به آرامی روی پارچه پهن می کنند. در مدت یک روز خاکستر آب را به خود جذب می کند و زیر پارچه نشسه سفید باقی میماند آن را همان گونه که هست با چاقو به اندازه‌های کوچک می‌برند و در هوای آزاد قرار می‌دهند تا همه آب موجود در آن تبخیر شود و نشاسته کاملا خشک گردد در حال حاضر بعضی از خانواده‌ها نشاسته آماده شده را از بازار خریداری می‌کنند در روزهای سال نو از این نشاسته برای تهیه پالوده خانگی استفاده می نمایند. برای تهیه پالوده به اندازه لازم نشاسته را در ظرفی آب می ریزند و در جای مناسب می گذارند تا با آب مخلوط گردد. آنگاه مقدار کافی آب را در دیگی روی اجاق به جوش بیاورند و مخلوط آب و نشاسته را به آرامی به آب جوش میافزایند و مرتب به هم میزنند تا یک نواخت گردد پیش از آنکه پخت نشاسته پایان یابد آب سرد را در داخل لگن یعنی تشت مسی می ریزند و آبکش مخصوص پایدار را در داخل آب لگن قرار می دهند، بعد نشاسته آماده شده را در آن می ریزد، تا به شکل دانه های مروارید از های آبکش خارج شود و در آب سرد بریزد. آب روی آنکه گرم گرب می شود عوض می کنند و در جای خنک نگهداری می کنند. برای مصرف پالوده تخم شربتی را چند ساعتی در گلاب می‌ریزند تا خیس بخورد و بعد با خمیر پالوده و شیره یعنی آب و شکر پخته شده مخلوط می‌کنند و بدین گونه پالوده سنتی آماده می‌شود سبزه سبزه از چیزهایی است که وجودش در سفره نوروزی ضرورت دارد. زرتشتیان یزد به سبزه ششه میگویند. دلیل سبز کردن ها در خانه به هنگام نوروز آن است که جان گرفتن دانه ها و رویش گیاهان را در نوروز و تازه شدن زندگی را در بهار تدایی می نماید. برای کاشتن ششه، دانه های مانند گندم، ماش، عدس و ترتیزک یا همان شاهی را به مدت یک شبان روز در آب می خیسانند. سپس، آنها را در کیسه های کوچک میریزند و در جایی گمتر قرار میدهند تا جوانه بزنند. جوانه زدن دانه ها را در گویش زرتشتیان یعز روز آمدن میگویند. پس از آن دانه های روز آمده را در بشخاب های بیلبه معمولا به مقدار سه عدد که مخصوص کاشتن ششعه است در زیر پرده ای از ماسه نرم می‌ریزند و آب می‌دهند تا سبز شوند و برای سفره نوروزی و نیز مراسم پنجه آماده کردند. برخی از خانواده ها برای زیباتر شدن صفره های مراسم کوزه سبز می کنند. و برای سبز کردن کوزه از دانه های ترتیزک که در آب لعابدار و چسبنده می شود استفاده میکنند. برای این کار یک کوزه سفالی نورا از آب پر میکنند و یک تکه پارچه سفید کتانی را روی آن میپیچند. آنگاه پارچه نمدار را با نازک از دانه‌های چسبنده ترتیزک میپوشانند. دانه ها به تدریج بر اثر رتوبت کوزه رشد می کنند و سبز می شوند. پنج کوچک و پنج بزرگ ده روز مانده به نوروز یعنی روز اشتادی زد و اسفند ماه پنج کوچک آغاز می شود و تا پایان روز انارام و اسفند ماه به مدت پنج شبان روز ادامه می یابد. در این زمان خانه و کاشانه برای برگزاری هرچه با شکوه در جشن نوروز آماده و مرتب می شود و تمام وسایل و مواد لازم نیز فراهم می گردد. پنج روز پایان سال پنج بزرگ نام دارد. این پنج روز جزء ماه گاتابیو به حساب میآید و ویژه برگزاری گاهین بار شهر همست پت میدین یا گاهین بار پنجه یا است که شرح آن در مراسم گاهن بار خواهد آمد. در بیشتر خانه ها به ویژه در روستاها که امکان تهیه نان و غذاهای سنتی و خوراکی های خانگی بهتر فراهم است خیشاوندان و همسایه ها در تدارک مراسم پنجه و نوروز به ویژه تهیه نان و خوراکی های سنتی به نوبت در هر خانه گرد میآیند و یکدیگر را یاری می دهند برای سفره نوروزی نان معمولی، نان شیر و کماج نیز تهیه می گردد. در تهیه خوراکی‌های های سنتی بانوان زرتشتی با یکدیگر همکاری دارد. نان شیر، برای نان شیر نخست آرد گندم را ریخته و مقداری از آن را برای پتکین برمیدارند. سپس بقیه را با شیر، مای خمیر، روغن، شکر، هل، گلاب و کمی آب به خمیر تبدیل می کنند. خمیر را خوب مچ می دهند و مدتی می گذارند تا برای پخت آماده شود. خمیر آماده شده را به چانه های کوچک تقسیم می کنند و چانه ها را بر پشت سینی بزرگی که روی صفری نهاده اند قرار می دهند و هر کدام را با چلپیچ به شکل دایره یا بیزی پهن می کنند و کمی تخم خرفه را برای تزئین روی آن می پاشند. و یک بار دیگر چلپیچ را روی خمیر می‌قلتانند تا دانه‌های خرفه کاملا به خمیر بچسبند. آنگاه خمیر پهن شده را روی لیپک قرار می‌دهند و به تنور می‌چسبانند. کماج شیرین نوعی نان شیرینیست و مواد آن مخلوطی از آرد، شکر، روغن، مغز گردو و بادام، هل و گلاب است و مانند کیک همزمان در دیگه های نسبتاً کوچک میکنند. می کنند. برای برگزاری پنجه بزرگ، نان پی پیاز، حلوای سن و حلوای شکر و چند نمونه آش تهیه می شود. نان پیه پیاز برای تهیه نان پیه پیاز پیاز را رنده یا چرخ می کنند. و با کمی دارچین در روغن پی سرخ و سپس آن را با خمیری که از آرد معمولی تهیه کرده اند مخلوط می کنند. بعد خمیر را به چانه های کوچک تبدیل کرده با دست پهن می کنند و به کمک لیپوگ به تنور می زنند. حلوای سن برای تهیه حلوای سن مقداری گندم جوان زده را که قبلا خشک کردن در حاون می کوبند تا نرم شود. آنگاه بخشی از آن را همراه با مقدار کافی تخم رازیانه، مغز گردو و مغز بادام آسیاب می کنند و بخشی دیگر از آن را به همان صورت کنار می گذارند. مقدار کافی خرمای سیاه را هم چند ساعت قبل در آب می‌خیسانند تا برای حلوا آماده باشد. آنگاه روغن را در ماهیتابه به خوبی داغ می کنند و گندم‌های خرد شده را که کنار نهاده بودند در آن می ریزند. سپس مخلوط آسیاب شده را اضافه می کنند تا کمی سرخ شود. آنگاه آب و خرما را به آن میافزایند و با قاشق آنقدر به هم میزنند تا سفت شود. حلوای شکر برای پختن حلوای شکر، روغن را در ماهیتابه به خوبی داغ می کنند. ابتدا خلال مغز سفید شده بادام را که قبلا آماده کرده اند در روغن سرخ می کنند. سپس آن را از روغن خارج کرده برای تزیین روی حلوا در ظرفی نگاه می‌دارند آنگاه آرد گندم را در ماهیتابه می‌ریزند و آنقدر به هم می‌زنند تا به قهوه کم رنگ تغییر رنگ دهد بعد شربتی را که با آب و شکر و هل و گلاب تهیه کردهاند کم کم به آرد سرخ شده می‌افتایند و مرتب به هم میزنند تا حالت خمیری پیدا کنند. حلوای آماده شده را در بشقابهایی پهن و صاف می کنند و روی آن را با خلالهای بادام سرخ شده که از پیش تهیه شده بود تزیین می کنند. در مراسم پنجه بزرگ که پیش از نوروز به پاس حضور فروهرهای درگذشتگان برپا می شود، خوراکی های دیگری هم تهیه می‌گردد. آشه رشته خمیر آشه رشته را با آرد گندم تهیه می‌کنند و آن را به کمک چله پیچ بر پشت سینی به لایه های نازک تبدیل می‌کنند و با کارد به صورت رشته‌های باریک می‌برند هنگامی که دانه‌های لوبیا و عدس و نخود با سبزی و روغن در دیگ پخته می‌شود رشته‌ها را به خوشنودی روان و فروهرهای درگذشتگان و به شادی و سلامتی اعضای خانواده به تدریج در آش می‌ریزند و آن را بار میگذارند. آش هفت دنار. برای تهیه این آش، هفت نوع دانه های حبوبات و غلات مانند باغلا، ماش، عدس، لوبیا، نخود، گندم و جورا از هر کدام یک مش تمیز می کنند و با یک عدد تخم مرغ شسته، با پوست و کمی برنج و یک عدد چغندر پوستگنده داخل دیگ مناسبی که به اندازه کافی آب دارد میگذارند و روی اجاق حرارت میدهند تا خوب پخته شود. سیروک نوی نان روغنی است که خمیر آن را قبلا مانند خمیر نان آماده میکنند. سپس یکی از بانوان که در این کار تجربه کافی دارد چانه یک از خمیر را برمیگیرد. آنگاه کف دست های خود را در روغن کنجد یا روغن مایه دیگری میگذارد و چانه خمیر را بین دو دستش در هوا به اندازه یک بشخاب، پهن و نازک می کند. و در روغن داغ درون ماهیتاب قرار می دهد. بانوی دیگری به کمک چوب کوتاهی آن را در روغن میچرخاند و هنگامی که زیر آن سرخ شد آن را پشت و رو می کند تا دو طرف آن کاملا پخته و برشته شود. آنگاه آن را از روغن بیرون می آورد. سییر یکی دیگر از خوراکی هایی است که در مراسم دینی تهیه می شود. برای تهیه آن مقداری برگ صدا به تازه را با سیر و کمی برگ سبز نعنا در فرصت مناسب چرخ می کنند یا در هاون خوب میکوبند و آن را در شیشه های دهانه گشاد نگهداری میکنند. در آغاز هر مراسم روغن مایه را در ماهیتابه می ریزند و مخلوط سیر و صدا و نعنا را در آن کمی سرخ می کنند را هم به اندازه لازم به آن می افزایند پس از آن مقداری سرکه را به آرامی در آن می ریزند و در حالی که مخلوط در حال جوشیدن است و بخار تند سرکه و سیر از آن برمیخیزد خیزد کمی آب به آن می افزایند آنگاه آن را در کاسه مسی روی تکه های نان می ریزند و کمی پودر نعنا را روی آن می پاشند. هر کدام از خوراکی هایی را که به مناسبت مراسم پنجه تهیه کرده اند به مقدار لازم در بشخابهای مسی قرار می دهند و با نان و کماج و سیرگ و بقیه چیزها به جایگاه اجرای مراسم می‌برند. آنگاه با حضور موبد و شرکت کنندگان مراسم دینی برگزار می شود. تا نوروز پجوهش و نگارش کروش نیخنام کاری مشارک از مجله اینترنتی آوای بوف و تولید کتاب های صوتی پرشنگ با همکاری آوای بوف و پرشنگ پرشنگ بوک دات کام و آوای بوف و دات کام جایگاه مراسم دینی جایی که مراسم دینی در آن برپا می شود. جایی تمیز، روشن و جداگانه در خانه یا تالار عمومی است. جایگاه اجرای مراسم دینی در خانه های زرتاشتیان یزد در بخش ویژایی از خانه است که به آن پسکم مس می گویند. پسکم مس در معماری خانه های زرتشتیان یه از چهار تالار صفه روبروی هم قرار دارد که اتاقها و انبارها و آشپزخانه در دو سوی هر تالار قرار دارند. یکی از این تالارها که دهانه آن کمی مایل به سمت شرق و رو به سوی طلوع خورشید است مخصوص برگزاری مراسم دینی می باشد. و در برگزاری مراسم پنجه، گاه و آداب مربوط به درگذشتگان، سفره مراسم را در آن می گسترانند. هر یکی از این تالارها را پسکم می گوید. و این گونه خانه ها را خانه های چار پسکمی می پسکمی را که سفره مراسم در آن پهن می کند. پسکم مص یعنی بزرگ می نامن. پیش از گستردن صفری مراسم پنجه و آوردن و نهادن خوراکی های شده شده روی آن پسگم را جارو می و ابتدا آب سپس محلول گل سفید می پاشن. گل سفید نوعی گل مدنی است که در بیشتر مراسم مذهبی زرتشتیان به کار می رود. برای تهیه محلول آن مقداری از آن را در ظرفی میریزند و به اندازه کافی آب اضافه می‌کنند. پس از مدتی که خیس آن را به کمک انگشتان دست در آب حل می‌کنند تا مایعی رقیق و سفید به دست آید. مقداری از آن را با دست بر زمین و دیوارهای پسکم می‌پاشند تا لکه‌های ریز و درشت سفید رنگ به وجود آید. بخشی از آن را نیز بیرون خانه بر دیوارهای دو سوی در ورودی و دیوار روبروی در و کف زمین می پاشند. تا نشان هست در آن خانه یکی از سنت دینی یا قومی در حال اجرا است. پس از ریختن گل سفید در پسکم و بیرون خانه بقیه آن را روی خشت خامی که در مراسم مذهبی مربوط به درگذشتگان به کار می رود می مالند و در جلو و قسمت میانی پسکم قرار می دهند. از همین خش در مراسم بعدی نیز به همین گونه استفاده می کنند در کنار این خشت سفید شده ارو روی سفره که در پسکم کمپ کردند تاس روزین آب کلچه، محتوی مرد و آتشدان پر از آتش سیلی پر از میوه‌های فصل ششه، سبز، سبزه خوراکی های تهیه شده و نان های پخته شده را با نظم خوشایندی میچینند روزین کاسه است در اندازه های مختلف که آنها را از آلیاژ مس و روی و بسیار نازک و شکننده می و برای نوشیدن آب و آشامیدنی های دیگر به کار می‌برند. کلاچا در مسی یا آلمینیامی یا روزین به شکل گلان گردنباریکی است که شاخه گیاهان سبز مانند مرد سر و شمشاد را در مراسم دینی در آن قرار می دن. مرد یا مرد گیاهی است همیشه سبز با برکایی شبیه انار و خوشبو که در مراسم دینی زرتشتیان جایگاه ویژهی دارد. سفره مراسم دینی زرتشتیان برای هر جشن یا مراسم سفری را در جای مناسبی در خانه یا در مکانی مانند تالار آتشگده یا آدریان می گسترانند. در بیشتر سفره ها نمادهایی از امشاسپندان وجود دارد. سفری از پارچه سفید را بر زمین گسترانند. که سمبال امشاسپند سپندارمز آرمیتی است. این امشاسپند در نقش مادی خود نگفان زمین است. آتش فروزان را که نماد اردیبهشت بهشت امشاسپند است در آتشدانی کنار سفره می و روی آن را کندور و چوب صندل و سایر مواد خوشبوه می ریزند. یک تا سر روزی پر از آب را در بخشی از سفره قرار میدهند. تاس تا نماینده شهریور بر و آب نشان خورداد امشاستفند است. جامی از شیر یا ظرفی از فراورده های آن را هم به یاد وهمن امشاستفند بر سفره می سبزه را هم که نماد امور دادم شاسفند از در سفره میگذارند در سفره میوه ها و خوراکی های دیگر را به این سبب میگذارند که خوردن گونه خوراکی از سفره به عنوان تبرک یکی از رسوم کهن آریایی است این گونه خوراکی ها را میس می و کسی را که پس از پایان مراسم دینی خوراکی را بین شرکت کنندگان پخش می کند میزد می گوین. این واژه در فارسی امروز به میزبان تبدیل شده است خوراکی تهیه شده و نانهای پخته شده را با نظم خوشایندی می چینند. موبت که با آگاهی قبلی در مراسم حضور یافته است، نیایش اوستایی آفرینگان گاهنبار را می و همه اهل خانه نیز به طور جمعی و هم نواب با موبت به نیایش و صدایش پروردگار می پردازن. امشاز پندون برخی از فروزه خداوند هستند. زرتوش، بر این باور است که انسان نیز می تواند این فروزه‌ها را در خود پرورش دهد. به گونه ای که ارزش های والای انسانی در او شکل وزیرد و به خداوند نزدیک شود. تعداد امشاسپندان شش است. و هومن نیکندیشی اشاوه هیشتا، راستی خشتر و توانایی آرمیتی، مهورزی، هورووتات، رسایی امیرتات، راودانی میزد یعنی فدیه و هدیه گراکی غیر آبکی مانند نان سیرک، میوه و غیره که در سفره مراسم دینی می و پس از پایان مراسم حاضران را پذیرایی می کنند. آتش روی بام خانه پس این همان روز شاخه های از هیزم را که پیش از آماده کردن به پشت بام می بالوی خانه همراه با هیزم تاس آب و بشقاب ششه و کلچه مورد و چراغ روغنی یا نفتی روشن و سینی میورا کم کم به بالای بام خانه می چنانکه که پیشتر نیز گفته شد ادهی از زرتشتیان بر این باورند که فرورهای پاک نیاکانشان از ده روز پیش از نوروز برای سرکشی و دیدار خانواده خود از آسمان به زمین فرود می آیند و ده شبانه روز در خانه و کاشانه خود به سر می برند از این رو در پایان آخرین شبی که برایvarcharو به جای مینوی خود خواهند گشت بر بلندی بام ها آتش میافروزند تا بدین گونه شادمانی خود را از آمدن آنان نشان دهد و نیز آرزوی خود را برای بازگشت آنان در سال آینده ابراز دارند برخی از زرتشتیان شريف آباد اردکان روز قبل از آتش افروزی روی پشت بام برای پنجه با گل رس کوهه و کوپی نیز درست میکنند و آنها را نیز با بقیه چیزها به پشت بام میبرند گاهنبار بخشی از خوردهاوسا است که موبدان در مراسم گاهنبار و با حضور دیگران میسرایند کوپی شرح بیشتر درباره ساختن و استفاده از کوه و کپی در مراسم پنجه پیش از نوروز خواهد آمد. به این انگیزه در سپیده دم نوروز بانوی خانه مقداری آتش را در حالی که شله میکشد از اجاق خانه بر و در آتشدان کوچکی می و همراه با مقداری برک خشک آویشن که در دست دیگر دارد به بام خانه می برند همه اهل خانه نیز به دنبال او به پشت بام می روند همه با هم رو به افق خواهر بخشی از سرودهای عوضایی را که در نیایش و ستایش پروردگار است می و پیرترین مرد یا زن خانواده همزبان با سرایش عوضای درون میوه های داخل سینی را با کار به بدونیم میبارند. و با این کار میوه ها را در بدرقه راه فرورها قربانی می کنن. با آغاز سپیدتا موبت مسئول آتشکده محل با به صدا درآوردن زنگ آتشکده و روشن نمودن هیز، بر بالای بام آتش کده آغاز بازگشت فرورها از زمین و نیز آغاز نخستین روز سال نورا گذارش می دهند. در این هنگام همه خانواده ها ها را بر بالای بام خانه های خود روشن می کنند و به این ترتیب نوروز با شادی و نور و نیایش آغاز می شود. بانوی خانه برکای آویشن را روی آب داخل تا روزین می و آن را گرداگرد گرد بام خانه روی زمین می ریزد. شاخه های را نیز رانیز از داخل کلچه بیرون می و بر بالای سردر خانه روی دیوار پشت بام چنان قرار می دهد که باد آنها را جابجا نکنند. نکند. این شاخه‌های مرد گاهی تا پایان سال در جای خود باقی می‌مانند. نیایش همگانی اهل خانه تا فروکش کردن های آتش ادامه می‌یابد. آنگاه بانوی خانه باقی‌مانده آتش را از خاکستر جدا می‌کند و در آتشدان می‌گذارد. و روی آن را کندور اسفند و چوب سندل می و به دی وزیله بامداد امداد نخصی روز از سال نورا به سهم خود خوشبو و اطراگین می سازن. پس از آن آتشدان را به همین صورت از بام خانه پایین می و پس از یک دور چرخاندن در همه جای خانه آن را به آتش‌گداه محل زندگی خود میبرد و آتش درون آن را در جای ویژه‌ای قرار میدهد تا با آتش آدوریان که نماد نور و گرمی موجود در جامعه است پیوند یابد. درون بخشی از اوستا است. که هنگام بریدن میوه های موجود در صفحه مراسم دینی سروده می شود. این میوه‌ها که درین یا درون نامیده می شود، بین حاضران تقسیم می شود. زرتشتیان یز به آتشتان و زرتشتیان کرمان به آن همازور نیز میگویند. سفره نوروزی پیش از تحویل سال نو باید سفره نوروزی آماده شود. در گذشته این سفره را زیر بیجو پهن کردند و پس از آغاز سال نو آن را به روی بیجو منتقل می کند. در سفره نوروزی به نمادهایی از امشاسفندان که پیش از این اشاره شد میوه، خوراکی و چیزهای دیگری هم وجود دارد. کماج شیرین، نان شیر و چند نمونه شیرینی خانگی در سفره نوروز قرار می‌دهند. کتاب اوستا، نامه آیین زرتشتیان را در کنار آینه و گلدان پر از گلاب می‌گذارند. چراغ روشن که نماد فروغ ایزدی و یادآور نیک‌اندیشی و راسی است نیز در سفره وجود دارد. چند تخم مرغ ساده و رنگ کرده را هم که نشان باروری میدانند در سفره میچینند. کاسه ای پر از پالوده و نیز کاسه شامل چند خوشبار ترش مزه مانند برگی شفتالو برگی زردالو، آلبالو، آلوچه و زرشق را که پیش از آن در آب حیساندن نیز در سفره می‌گذارند. همچنین مقداری پسته، فندق، بادام کاغذی، تخم کدوی تنبل و مغز بادام را که از پیش دادهاند درون کیسهی به نام دلوگ، که با ترخی ویژه و زیبا از پارچه ابریشمی گلدوزی شده و به رنگ سبز یا ارغوانی درست شده است میریزند و به عنوان آجیل نوروز در سفره قرار دهند. آدوریان در هر شهر آتشکده مرکزی را آتش ورهرام میگویند و آتشکده های کوچکتر را در هر محل یا روستا آدوریان یا درمه می نامن ویجو سبدی از مسته از شاخه های یک تا یکونیم متری نیک نخ به هم میبستند و چهار گوشه آن را به وسیله چهار رشته تناب یا سازو به صورت هرم به وسط سخف اتاق آویزان می و نان و گوشت و برخی مواد غذای دیگر روی آن نگاه می ظرفی از نقل یزدی و بشقابی از میوه های مختلف به ویژه انار و مقداری سبزی خوردن و پنیر و چند کاهو هم زینت بخش سفره نروزی هستند. کوزه سفالی نو را آب تازه می کنن و با شش سبزه و تا پر از آب در حالی که یک عدد انار در آن نهاده‌اند و مقداری برگ خشک آویشن نیز روی آن ریخته‌اند در بخشی از سفره قرار می‌دهند. زرتشتیان کرمان و بم یک عدد جاروی نو و یک بسته کبریت و مقداری پنبه را هم در سفره میگذارند. بخشی از زرتشتیان کرمان، جارو و کبریت را پس از سیزده نوروز برای استفاده به آدریان یا نیایشگاه دیگری میبرند. جیمان، چیمان چیمان یکی از خوراکی های دیگر موجود در سفره نوروزی زرتشتیان کرمان و است که برای تهیه آن مقداری نان تازه را به قطعه های کوچک تبدیل می‌کنند و با مقداری خرمای سیاه که از پیش هسته های آن را جدا کردهاند در دیگی می‌ریزند و با کمی روغن جامد گاو یا گوسفند روی اجاق حرارت می‌دهند و آنها را به هم می و پس از مدتی از روی اجاق برمی‌دارند. پس از آن که گرمای آن کاهش یافت با کمک انگشتان و کف دست آن را به صورت گلوله هایی در می و در سینی می و در سفره قرار میدهند. دولوک کیسه های ابریشمی است که بالای آن به کمک نخ مخصوصی باز و بسته می شود. در جشن ها و مراسم شادی آجیل و شیرینی را در آن میریزند و از مهمانان پذیرایی می کنن. زرتشتیان کرمان به آن مفرد شو هفت سین. در سفره نوروزی هفت سین نیست فراهم می شود. عدد هفت یکی از عددهای برجاون و گزیده شده در فرهنگ ایرانی و زرتشتیان است. هفت سین در مراسم نوروزی به روایتهای گوناگون به وجود آمده است. گروهی از پژوهشگران بر این باورند که در زمان ساسانیان بشقاب های نقشدار بسیار زیبایی را در سرزمین چین به ایران آوردند. که به تدریج به نام آن سرزمین چینی نام گرفتند. و واژه چینی بعدها به سینی تبدیل شده است در جشن نوروز آن زمان میوه ها و ها و خوراکی های دیگر در هفت عدد از این سینه خام می و بر سر سفره نروزی می و آن را هفت چینی یا هفت سینی که بعدها در طول زمان به هفت سین تبدیل شده است. گروهی دیگر بر این باورند که در زمانهای پیش هفت بر سر سفره می گذاشتن. ماننده شیر شکر شیرینی شربت که به تدریج به هفت سین تبدیل شده است گروهی دیگر بر این گمانند که ابتدا هفت چین بوده است. یعنی هفت نوع چیدنی از درخت که بعدها به هفت سین تغییر یافته است. در هر حال امروزه در بسیاری از خانواده‌های زرتشتی، به ویژه در شهرها هفت نیست نیز در سفره نروزی فراهم می‌آید. پیش از آغاز سال نو همه اهلخانه خانه سر و تن خود را می شوین. لباس لباس‌های نو میپوشند و گردا گرد وگرد سفره نوروزی می‌نشینند. چند دقیقه مانده به تحویل سال با اشاره پدر خانواده هم با هم سرودهایی از عبستا را که در سپاس و ستایش اهورامزدا و ستایش زندگی و آفریده های نیک اهورایی سمزم هفت، یکی از عددهای مقدس در باور ایرانیان باستان است که اهورامزدا و شش فروزه امشاسمندان را یادآوری می کند. به هنگام نو شدن سال نخست بانوی خانه آینه و گلاپاش را از سفره بر می دارد و گلاب را در دست هر کدام می ریزد و همزمان آینه را روبروی چهره آنان می گیرد تا روی خود را در آن ببیند این کار را از سال ترین فرد خانواده شروع می کند و زمین این کار نوروز را به هر کدام از آنان شاد باش می گوین. آنگاه پذیرایی نوروزی ابتدا با نقر سپس با سایر شیرینی ها آغاز می شود. پدر خانواده نیست به دیگران سکه نقره یا اسکناس نو عیدی می دهد. هم به هم شادمانه تبریک میگویند. و سپس مقداری از غضا درون سفره را با هم و شادی صرف می کنند. تا نوروز پجوهش و نگارش کروش نیکنام کاری مشارک از مجله اینترنتی آقای بوف و تولید کتاب های صوتی پرشنگ با همکاری آقای بوف و پرشنگ پرشنگ بوک دات کام و آقای بوف و دات کام نیایش روز اورمزد و فروردین در نخستین روز سال نو همه مردم محل به آتشکده یا نیایشگاه محل زندگی خود میروند تا روز نو و سال نو را با وحدت و همبستگی در مکانی مقدس با نیایش به درگاه خداوند جان و خرد آغاز کنند در کنار آتش آتشکده که سمبول نور و روشنایی است زرتشتیان به نیایش خداوند یکتا میپردازند. نیایش زرتشتیان در پنج گاه یا پنج نوبت در طول شبانه روز انجام میشود و بایسته است که در برابر هر گونه روشنایی انجام پذیرد. ولی بیشتر خانواده ها ترجیح میدهند که نیایش روز خجسته ارموز و فروردین ماه را در کنار آتشگده یا یک نیایشگاه، محلی که عطر بوی کندور پراکنده است به صورت همگانی انجام دهد. دید و بازدید نوروزی. دید بازدیدهای نوروزی از روز اول فروردین ماه آغاز می‌گردد. فرزندان برای دیدار و شادباش گفتن به بزرگترها نخست به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ، پدر و مادر می روند و پس از آن مراسم شادباش نوروزی به خیشان و آشنایان تا روز بیست و یکم فروردین ماه ادامه می آبن. زیرا در باور زرتشتیان تا بیست و یک روز پس از آغاز سال نو جشن نوروز ادامه خواهد یافت. زادروس اشو زرتوشت هاود رو زرتوشتیان زاده شدن فرزندان چه پسر و چه دختر را گرامی می‌دارند. در گذشته هنگامی که کودکی از مادر متولد می پدر او در همان سال به یاد فرزندش نهالی از درخت همیشه سبز مانند سرد مورد یا کاج را در جایی مناسب در خاک می نهاد و برای رشد و سرسبزی این درخت نیز. مانند فرزندش کوشش مینمود از رسوم ایرانیان باستان در روزگار گذشته برگزاری روز زادروز برای خود و فرزندان بوده است و این جشن مربوط به طبقه خاصی نبوده بلکه بینیاز و نیازمند آن را برپا می‌داشتند هرودت تاریخ نگار یونانی می‌نویسد پارس‌ها عادت دارند که روز تولد خود را جشن بگیرند در آن روز آنها مجالس میهمانی برگزار می کنند و جشن و شادمانی می‌نمایند و این را مراسمی شایع میدانند که باید برگزار شود. در آن روز حق خود میدانند که جامعه های نو بپوشند و خوراکی های خوب و متنوع تهیه کنند به طوری که با دیگر روزها تفاوت داشته باشد. روز شما از ماه فروردین خورداد نام دارند. در این روز پیامبر ایرانی از مادر زاده شده است و در سن سی سالگی در همین روز به پیامبری برگزیده شده است و با همین انگیزه و پیامت های ساز دیگری که در تاریخ گذشته ایرانیان رخ داده است. زرتشتیان این روز را جشن می و گرامی می دارن. آنها در این روز به نیایشگاه ها و آدریان محل سکونت خود می روند و با تحییه آشرشته و سیرک و خوراکی‌های سنتی و اجرای مراسم آفرینگان و جشت خانی خورداد و فروردین ماه را در هر سال گرامی می دارد. جشت خانی از واژه اوستایی یسنا به معنی ستایش کردن گرفته شده است. ایرانیان باستان روزهای بسیاری از سال را با شکوه ویژه جشن میگرفتند و در این روز با مراسمی دلانگیز شادی آفرین، را نیایش و فروزههای نیک آفرینش را ستایش میکردند. برای تدارک سفر جشنخانی از چند روز قبل لرک را آماده میکنند. لورک آجیل ویژه جشت و مراسم دینی است. لورک جشت مخلوطی از پسته، مغز بادام، مغز گردو، فندق، کشمیش سبز، آبنبات، نباد، غیسی، خلال نارگیل، خورما و چند نمونه خشکبار دیگر است. که هر یک از آنها را از پیش پاک کرده و با هم در سینی می‌ریزند. و روی آن را تضعیم می کنند و بر سر سفره سفید می گذارند. گاهی این لورک تنها دو یا سه نمونه از این مخلوط است. گلدانهای گل و برکهای مرد، شمشاد و سرف را در دو سوی سفره قرار می دهند و در دو گوشه دیگر دو عدد شمدان با شم روشن قرار می دهند. آتشتان پر از آتش را هم در سینی مخصوص خود میگذارند و در قسمت جلوی سفره میدهند در سینی کوچکی لیوانهایی از شربت و شیر میگذارند و کلچه مرد و سینی میوه را هم بر سر سفره قرار می دهند دو نفر موبت مراسم جشن را اجرا می کنند که زود و راسپی نامیده می شوند آنها لباس سفید مخصوص در دارند و کلاه سفید بر سر می نهند و دستمال سفیدی که پنام نامیده می شود در جلوی بینی و دهان بستن و روبروی هم در دوسوی سفره می و مراسم را با سرایش بخشهایی از اوستا شروع می کنند و پس از آن در حالی که روبروی هم مینشینند سرایش اوستا را ادامه می دهند. در هنگام سرایش قسمتی از آفریندگان دهمان و کرد سروش راسبی از جای خود بر زود در حالی که شاخه مرد را در دست می گیرد، سرود آفای نامه را آغاز می کند. راست این واژه را با صدای بلندتر آغاز می کند و حاضران نیز با بالا بردن یک انگشت دست خود همراهی خود را در کلام موبد اعلام می دارند. در این سرود، موبد از خداوند برای فرمانروای دانا و دادگستر بالاترین توانایی ها و پیروزی ها را خاص دارد. آرزو می کند که او تندرستی و عمر دراز داشته باشد و همواره با سلاح اندیشه نیک در نبرد با کجندیشی پیروز گردد پس از آن زود با اعلام ویسبو خاطرم شاخه دیگر از مرد را در دست می گیرد و شرکت کنندگان هم پس از اعلام راسبی دو انگشت دست خود را بالا می گیرند و موبد در این قسمت از اهورا درخواست می که او را یاری دهد تا با پیروی از اندیشه، گفتار و کردار نیک از زمره نیکوکاران روزگار باشند. حاضران نیست که نیایش آفینامی و آرزوهای موبد در ویس بخاطرم را با علامت دست پذیرفتند پس از پایان این سرود عشم و خو و با حرکت انگشتان خود آنچرا که با موبد هم عقیده شده بودند میبوسند و بردیده میگذارند. سپس قسمت دیگری از اوستا به نام همازور دهمان توسط موبت خانده می شود که در سراسر این بخش از اوستا موبت آرزو می کند تا همبستگی و همفکری و هماهنگی بین انسانها پایدار بماند و همواره بتوانند راستی را گسترش دهند و بر علیه کجندیشی و نابرابری مبارزه کنند. در پایان اوستای همازور دهمان ده موبد آتشتان را از سفره بر می دارد و مقداری کندور اسفند و چوب صندل بر آتش می و در حالی که بوی خوش از آتش بر می خیزد برای همازوری به موبد دست می دهد و آنگاه آتشتان را به میان حاضران می و آن را در کنار و روبروی همه می و همازور بیم می و هر نفر نیز این واژه را بازگو می کنند و بعد لورک را به نسبت مساوی و هر نفر یک مشت بر می دارد و بین همه تقسیم می کنند آنگاه خوراکی های آماده شده را نیز با هم صرف می کنند موبدان که پیشوایان دینی زرتشتیان هستند در برگزاری تمامی مراسم دینی شرکت دارند آنها همراه با شرکت کنندگان نیایش همگانی میخوانند و با سورهش بخشهایی از اوستا گاساها یسنا شادی روان را برای درگذشتگان آرزو می کنند. افرادی که تصمیم دارند موبد زرتشتی باشند باید مراحلی را پشت سر بگذارند و در پایان دوره آموزش در مراسم نوزودی شرکت نمایند آین نوزودی. واژه نوزود از دو قسمت نو یعنی جدید و زوت یا سوت تشکیل شده است. نام موبدی است که در مراسم دینی و یشین مدیر و هماهنگ کننده مراسم است. پس نوزود یعنی موبدی که به تازگی به درجه روحانی رسیده است و این هنگامی است که مراحل یادگیری اوستا، گاساها، یسنا و یشت ها را باشد و چگونگی اجرای مراسم دینی را نیز به خوبی آموخته باشد و از آزمون پایان هر دوره پیروز شده باشد همچنین او باید خوشفکر، راستگو، درستکار، فروتن و سلامت جسم و روان برخوردار باشد در گذشتی موبتی که تصمیم داشت مرحله نزودی داشته باشد نخست به مدت نه شبانه روز برش نوم می و پس از آن روزی را برای نوزودی مشخص میکرد. یک روز پیش از نوزودی چند تن از موبدان کلاه ویژه از پارچه سفید و تزیین شده با زنجیر و سکه زر و نقره برای نوزود تهیه و یک عدد ورس نیز درست میکردند. ورس را از شاخه های تازه درخت انجیر یا فراهم میکردند. شش عدد از این شاخه ها را انتخاب کرده یکی از آنها را به صورت دایر خم می کنند و بقیه را به فاصله مساوی به دایره می و یک سوی آنها را با نخ در قسمت بالا به هم متصل می کنند که چارچوبی مخروطی شکل در آین. روی این شاخه ها را از نخهای پشمی با رنگهای گوناگون می پیشند تور نازک پارچهی به رنگ سبز را به دور ورس می پیشند و آن را به طور ایستاده در یک سینی گرد مسی قرار می دهند. چهار عدد آینه کوچک قابدار با مقداری لرک و نقل و یک عدد انار شیرین در داخل سینی زیر ورست می گذارن. مراسم نوزودی اغلب در بامداد انجام می گیرند. و گروه زیادی از زرتشتیان به محل برگزاری مراسم می آیند و این مراسم در یک محل بزرگ و اغلب در کنار آتشگده انجام میگیرند. شرکت کنندگان در اطراف می ایستند. موبدان همه با لباس سپید شرکت می و در اتاق مجاور آتشگده در کنار نوزود مینشینند. آنها نیایش های ویژه میخوانند و اندرس هایی به تازه موبد می دهن. سپس ورسال، آخرین موبدی که نوزود شده است، سینی ورس را بر دست می‌گیرد و دست نوزود را می‌گیرد. نوزود هم لباس موبدی بر تن و کلاه سفید مخصوصی بر سر دارد که نشان می‌دهد مراسم نوزودی به افتخار او برپا شده است. او قطعی فلز به شکل کلید در دست دارد و آن را تکان می‌دهد. بقیه موبدان نیز به همراهی آنها حرکت می‌کنند. و به جمع شرکت کنندگان می آیند. آنها سه بار به دور آتشدان آتش می چرخند و با هم در حال سرایش بخشی از اوستا هستند گاهی برک های خوش آویشن به همراه برنج و دانه های سنجد بر سر و دوش موبدان ریخته می شود و همه شاباش می گویند. آنگاه فرستار و نوزود به یسشنگاه می روند و یسشنگ می خوانند و نوزود با این مراسم به درجه مبدی میرسد. نیایشگاه های زرتوشتیان در درازای تاریخ زندگی خود که در سرزمین ایران داشتند مانند پیروان عدیان دیگر محل را برای نیایش، نماز خواندن و سپاس و ستایش اهورامزدا به وجود آوردند که آنها را نیایشگاه میگویند و بعدها به زیارتگاه تغییر نام داده است غیر از آتشکده و آدوریان که جای نیایش کردن و گرد همایی زرتشتیان است مکانهایی به نام شاهوهرام ایزد نیز در بعضی شهرها مانند کرمان تهران، کرج، اهواز و یزد وجود دارد. افزون بر اینها، های دیگری به نام پیر در استان یزد وجود دارد که محل گرد همایی زرتشتیان در روزهای ویژه سال است. پیر هریشت روز امرداد تا خور از ماه فروردین هفت تا یازده فروردین ماه این نیایشگاه در 14 کیلومتری شهر اردکان و در فاصله هشتاد کیلومتری شهر یزد واقع شده است و در باور گروهی از زرتشتیان جایگاه ابدی یکی از ندیمگان دختر یزدگرد سوم به نام گوهربانو بوده است که در پی تقیب تازیان پس از حمله به ایران از کاروان جدا شده است و پس از سرگردانی در این محل به نیایش خداوند میپردازد و ناگهان ناپدید می شود. اکنون در این محل نیایشگاه پیره هریشت در بالای کوه از سنگهای آهکی سیاه ساخته شده و در پایین کوه ساختمانهایی توسط خیراندیشان ساخته شده است که خیلی نام دارد. و نیایش کنندگان که از راههای دور به این مکان میآیند برای چند روزی در این خیلها به سر میبرند سیزده نوروز روز تیر از ماه فروردین سیزدهم فروردین سیزدهمین روز از ماه فروردین تیر یا تشتر نام دارد ایزد تیر یا تشتر که در عوستا یشتی هم به نام آن وجود دارد ایزد باران است و در باور پیشینیان پیش از اشو زرتشت برای اینکه ایزد باران در سال جدید پیروز شود و دیو خشکسالی نابود گردد باید مردمان در نیایش روز تیر ایزد از این ایزد یاد کنند و از او درخواست باریدن باران نمایند. در ایران باستان پس از برگزاری مراسم نوروزی و هنگامی که سبزه از زمین می روید و گندم و حبوبات سبز می گشتند. در روز سیزدهم که به ایزد باران تعلق داشت مردم به دشت و صحرا و کنار جوی بارها می رفتند. و به شادی و پایکوبی می پرداختند و آرزوی بارش باران را از خداوند مینمودند. اکنون هم زرتشتیان از بامداد روز تشتریزد و فروردین ماه سفره نروزی را برمیچینند، خوردنی‌ها و مقداری آجیل و شیرینی‌های های باقی مانده در سفره نوروز را با خود به طبیعت میبرند، و شش سبزه های موجود در سفره را با خود بر دارند و به دشت و صحرا و کنار چشمه ها یا آبهای روان می روند. سبزه خود را در کنار جویبارها به آب روان می سپارند و آرزو می کنند که سالی پربرکت و خور داشته باشند. تا پسین آن روز را بیرون از خانه هستند و در طبیعت و میان سبزه و صحرا به شادمانی می پردازند. پیش از روز سیزدهم و بعد از آن روزهای ماه و گوش نام دارد. این دو روز از روزهایی هستند که نبر نام دارند روزه گرفتن و نخوردن خوراکی در طول روز در آین زرتشتیان وجود ندارد و به جای آن در هر ماه و در روزهای معینی که نبور نام دارد آنها هیچ گونه خوراکی که نوعی گوشت در آن باشد مصرف نمی کنند. نام روزهای نبر وهمن، ماه، گوش و رام هستند و روزهای پرهیز از خوردن گوشت به حساب می این عمل باعث حفظ بقای حیوانات می شود و هم برای سلامتی انسان مفید می باشد.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 جشن فروردینگان فرودود روز فروردین از ماه فروردین نوزدهم فروردین. فروردین زرتوشتیان در هر ماه هنگامی که نام روز با نام ماه برابر می شود آن روز را جشن می و هر یک از این جشنها را به مناسبتی برگزار می کنند. نخستین جشن ماهیانه در هر سال جشن فروردینگان نام دارد که روز فروردین از ماه فروردین برابر با نوزدهم فروردین است و به آن فرودک هم میگویند این جشن به فروهر پاک درگذشتگان و نیاکان مربوط است به همین دلیل همه برای شادی روان و فروهر درگذشته خود به آرامگاه می روند هر کس برای تهیه میزد در مراسم جشن فروردینگان میوه یا لرک با خود می آورد بانوان سیر و صداب، سیرگ، آش و بقیه خوراکی‌های مراسم را تهیه می موبدان لباس سپید ویژه اجرای مراسم مذهبی برتن کرده و آفرینگان خانی را به صورت گروهی اجرا مینمایند و شرکت کنندگان نیز نیایش می کنند و بر روان و فروهر درگذشتگان درود میفرستند. ده موبادان هنگام اجرای آفرینگان خانی میوه ها را با کارد به اندازه‌های کوچک میبرند و پس از پایان مراسم بین شرکت کنندگان همراه با لورک تقسیم میکنند. مراسم نیایشگاه شاه و رحرام ایزد بیستم روز از ماه سیروه زرتشتیان و نامیده می شود. و یعنی پیروزی و ورحرام ای ایزد یعنی پیروزی قابل ستایش. در باور ایرانیان پیروزی همواره با ارزش و قابل ستایش بوده است. به همین دلیل در ابستا، سرودهای زیبایی در ستایش پیروزی آمده است. ایرانیان باستان پیش از آغاز هر کار گروهی در نیایشگاه ویجه گرد می آمدند و سرودهای ستایش پیروزی را با هم می و با روانی نیرومند و اراده استوار برای کسب پیروزی پای به میدان مبارسه زندگی می نهادند. این نیایشگاه ها به تدریج به نیایشگاه ورهرام ایزد معروف گشت اکنون زرتشتیان دست کم ماهی یک بار در روز ورحرام در نیایشگاه شاه ورهرام ایزد گرد هم می و اهورا را نیایش می کنند و از او می خواهند که پیروزی را در زندگی بهره آنان گردند. و نیز همه کسانی را که به پیروزی از پیام و زرتشت در تازه گردانیدن زندگانی، پیش بردن جهان هستی و گسترش آینه راستی میکوشند پیروز و سرافراز گردانند. اقلب زرتشتیان برای حضور در زیارتگاه ها، آدریان نیایش کردن همواره، صدره و کشتی بر تن دارند. آین سدر پوشی. پوشی مراسمی است ملی که گروهی از ایرانیان در نقاط مختلف به انجام مراسم آن می پرداختند و نوجوانان خود را در سنین بلوغ مزین به سدره و کشنی می نمودند و آن را لباس پاکی و شجاعت می دانستند و این اعتقاد و مراسم بعدها در بین زرتشتیان رواج یافت و جنبه دینی به خود گرفت و در حقیقت لباس حشیاری و خیرتمندی است. صدره پیراهنی سفید و گشاد از جنس پنبه است که دارای های کوتاه است و یقه ندارد و آن را در زیر لباس بر تن می‌کنند. کشتی بندی سفید رنگ از جنس پشم است و آن را سه دور بر روی صدره بر کمر می‌بندند. بسن کشتی بر کمر داشتن کمربندی است در جهت گسترش راستی و مبارزه با دروغ و کجنبیشی. مراسم صدرپوشی پوشی است که خانواده های زرتشتی برای فرزندان خود برگزار می نماید. هر پسر یا دختر در خانواده زرتشتی هنگامی که به سن لازم می رسد و خرد او اجازه می دهد تا آموزش های پیامبرش را درک نماید و در زندگی به کار گیرد جشن صدرپوشی برایش برپا می شود. و او در این مراسم پوش می میگردد و به طور رسمی تیش و آیین نیاکان خود را میپذیرد این جشن در خانه یا در تالار آدرویان یا در نیایشگاهی برگزار می شود این مراسم گاهی به صورت همگانی و در حالی که چند نوجوان سرتوشی با هم صدرپوش شوند اجرا می شود در این جشن بسیاری از خویشان و آشنایان پسر یا دختری که صدرپوش می شود حضور دارند تا گواه بر برگزاری جشن صدرپوشی آنها باشند صفره سپید همانند صفره جشت خانی در جایی مناسب گسترده می شود و آنچه که لازم است در سفره نهاده می شود گلدان گل و صرف، شمدان با شم یا چراغ روشن آتشدان با چوب صندل و کندر، لرک، میوه، نقل و شیرینی قند سبز و بشقابی کوچک که مخلوطی از برنج، جو و برک های خشک آویشن در آن ریخته اند و کشتی نیز بر آن نهاده اند در سفره چیده می شود. میهمانان که با دعوت قبلی به محل برگزاری جشن می آیند نخست به آنها آینه و گلاب داده می شود. سپس با کیک و شربت و شیرینی پذیرایی می گردند آنگاه به انتظار شروع مراسم می نشینند. نوجوان در حالی که سروتن خود را شسته است، صدره و لباس سراپا سفید می پوشد، کلاه یا روسری سفید برسر می گذارد و همراه با موبد که او هم لباس سفید ویژه مراسم پوشیده است در کنار صفری صدر پوشی حاضر می شوند. کسی که قرار است صدر پوش شود در کنار سفره و در برابر روشنایی می نشیند و موبد روبروی او قرار میگیرد. موبات از دهشت را میسراید و کشتی را از هم باز میکند. پس از آن به طرف دیگر سفره میرود و در پشت سر نوجوان می استد. موبد انگشت میانی دست چپ خود را به وسط بند کشتی میبرد و دو سوی دیگر کشتی که گره دارد را با انگشت میانی دست راست خود میگیرد. نوجوان انگشت های کوچک دست های موبد را میگیرد. و بابهی در عوستاخانی هم پیوند می شود و عوستای کشتی را با هم می در قسمتی از سرایش اوستا کشتی توسط موبد به کمر نوجوان بسته می شود. کشتی سه بار به دور کمر می چرخد. دو گره در جلو و دو گره در پشت به آن زده می شود و پس از آن سرود مزده گسن و آهمی خانده می شود. در این سرود، نوجوان آینه نیاکان خود را میپذیرد که ترجمه آن چنین است. برمیگزینم کیش مزد یسنا را که آورده زرتشت است و استوارم بر این کیش. میستایم اندیشه نیک را، میستایم گفتار نیک را و میستایم کردار نیک را. میستایم دین نیک مزد یسنا را، که نکوهندهی جنگ و خونریزی و ستایشگر آشتی و از خودگذشتگی و پارسایی است. این کیش زرتشتی و احورایی احورا مزدارا آفریننده ی همه ی نیکی ها می داند. نوجوان برابر سفره می نشیند و در پایان مراسم عوستای تندرستی توسط موبد خانده می شود و دانه های برنج و جو و برک های خشک آویشن را به آرامی بر سر و دوش نوجوان سدرپوش شده می ریزد و با این کار تندرستی و پایدار ماندن او را به آین راستی آرزو می کند جشن اردیبهشتگان روز اردی بهشت از ماه اردی بهشت دوم اردی بهشت. روز اردی بهشت از ماه اردی بهشت جشن اردی بهشت گا نام دارد. اردی بهشت از واژه هوستایی عشاوههشت تا گرفته شده است که پاکی و عشویی معنی می دهد. ایرانیان باستان در این روز لباس سپید که سمبول پاکیست مرتن می میکردند و به آدریان یا آتشکده میرفتند و نیایش اهورا مزدارا به جای می اکنون نیز زرتشتیان در جشن نوردی به به آتشکده و آدریان می روند و با سرایش اوردی به خداوند جان و خرد را ستایش می کنند. مراسم گاهنبار واژه گاهنبار کوتاه شده گاهانبار است یعنی گاهها و زمانهای به ثمر رسیدن و بار گاهانبار گاهنبار جشنهای بسیار کهن هستند که به پیشه اصلی ایرانیان یعنی کشاورزی و دامداری ارتباط دارند این جشنها در شش هنگام یا چهره و در هر چهره به مدت پنج روز در سال برگزار می شوند. زرتشتیان در نگرش سنتی خود باور دارند که آفرینش در شش مرحله از سوی خداوند در شش چهره گاهنبار انجام گرفته است. در اوستا جشن‌های های ششگانه به صورت یایریه یعنی سالی و فصلی آمده است. این واژه در زبان پهلوی به صورت گاسانبار یا گاهانبار آمده است. پیش از شروع گاهنبار مراسم واجیشت انجام می گیرد. در هنگام سپیده دم نخستین روز از چهره گاهنبار، مراسم واجیشت گاهنبار در محل آتش و احرام هر شهر برگزار می شود. در مراسم واجیشت، موبدان هوشت و گروهی از زرتشتیان شرکت دارند. یکی از موبدان که زود نام دارد، هفتاد و دو حات یسنا را می سراید، و موبد دیگر که راسبی نامیده می شود، در سرودن قسمتهایی از یسنا با زود همکاری می نماید. این مراسم یزشنخانی نام دارد و در اتاق مجاور محل نگهداری آتش که نامیده می شود، برگزار می شود. در هنگام یزشنخانی و سرودن یسنا، شربت پراهون توسط موبدان تهیه می گردد، آنها این شربت را از کوبیدن و نرم کردن ساغه گیاه هوم با آب در هاون مخصوصی به دست می آورند و در پایان مراسم در ظرف کوچکی میریزند و به شرکت کنندگان می دهند تا بیاشامند. در پایان مراسم واجیشت گاهنبار نخستین روز هر چهره گاهنبار شروع می شود. در بسیاری از روستاهای زرتشتین شین یزد که هنوز معماری بومی و سنتی پایدار مانده است گاهنبار در خانه ها برپا می شود. اهل خانه از مدتی پیش از زمان گاهنبار در تداروکان می کوشند. لورک و خوراکی ها را تهیه می کنند. یک روز پیش از گاهمبار خانه را جارو می کنند و آب می پاشند. گل سفید در پسکم مست و بیرون خانه می پاشند. نانو خوراکی های سنتی را تهیه می کنند و صفره گاهنبار را در پسکم مصق می گسترانند و آنچه که برای سفره مراسم مذهبی لازم است در آن می گذارند. آنچه که برای لرک گاهنبار فراهم می شود با لرک جهشت خانی و صدر پوشی اندکی تفاوت دارد. لرک گاهنبار مخلوطی از خورما، سنجد، کشمش، بادام، گردو و برگه هلو و انجیر خشک است که آنها در دستمال بزرگی به نام چادر شب می‌ریزند و آن را در کنار سفره در پِسکم مس پهن می‌کنند و آن و روی آن را یک عدد انار با چند شاخه مورد می‌گذارند مردم هر روستا با موبت و ده موبد به نوبت در خانه که گاهمبار دارد می می‌شود موبد و ده موبد در پسکم مست و به کنار صفره گاهنبار می روند و شرکت کننده ها در پسکم های دیگر اتاق ها و حیات خانه می نشینند. ده موبد با صدای بلند نام درگذشتگانی را اعلام می کند که گاهنبار به یاد و از دهش آنها برگزار می شود و از شرکت کنندگان می خواهد تا کشتی را نو کنند. همه به پا می خیزند. همصدا با موبت رو به سوی روشنایی می کنند و عوستای کشتی میخوانند. کشتی را از کمر باز می کنند و در هنگام نیایش آن را دوباره بر کمر میبندند و پس از پایان نیایش مینشینند. با اعلام ده موبت سیر و صداب را در آغاز گاهنبار همبار تهیه می کنند و آن را در تاس مسی یا روزین می ریزند و به پسکم مس میآورند. موبت اوستای آفرینگان گاه هم را میسراید. در این هنگام ده موبت میوه های داخل سینی را به وسیله کارد به اندازه های مناسب میبرد. اوستاخانی موبد و همکاری حاضران و ده ادامه می آبد. مانند آنچه در آفرینگان جشت خانی شهر داده شد. در پایان مراسم ده مقداری لورک را به هر نفر می دهد. و سپس سینی میوه که درون یا در نام دارد را جلوی همه میبرد تا هر کس پاری از میوه را برای خوردن بردارد. در بعضی گاهمبارها هم به همراه لورگ نان هم به شرکت کنندگان میدهند. این نان که کوچکتر از نان معمولی است لوگ نام دارد و یک روز قبل آن را در تنور میپزند. در بعضی کامبارها خوراکی های مخصوصی مانند آش و آبگوش تهیه میشود. تا در پایان مراسم از میهمانان پذیرایی کنند. در کرمان، تهران و شهرهای دیگر نیز گاهمبارها به همی شیوه ولی بیشتر در سالونهای آتشکده و آدریان برگزار می شود. در کرمان دو نوع نان دیگر نیز برای سفره گاهنبار تهیه می کنند که یکی از آنها کلون نام دارد. نان دیگر که دور تا دور آن را با خمیر به شکل پرتوهای خورشید در میآورند نان خورشیدی یا خورشیدو مینامند. هفت عدد از این نان را در سفره گاهنبار می‌گذارند. در بعضی از گاهنبارهای کرمان پس از اینکه مراسم تمام می‌شود، لورک و میوه بین شرکت کنندگان تقسیم می‌گردد و با غذایی که در گاهنبار تهیه شده است، از،, از میهمانان پذیرایی می‌شود و به هر نه و به هر نفر یک عدد کلو که در وسط آن مقداری دونو و صداف اضافه کرده اند، در پایان مراسم می دهند. میدیو می دیو زرم روز خور تادی به مهر از ماه اردی به هشت ده تا چهارده اردیبهشت از روز خور تا روز دی مهر در ماه اردیبهشت بهشت چهره می زرم به شیوه ای که گردید در خانه ها یا در سالن توسط زرتشتیان برگزار می شود. می از واژه یابستایی میدیو یعنی میان و زرمیه یعنی بهار تشکیل شده است و به این ترتیب میان بهار معنی می دهد. و این جشن هنگامی است که گیاهان رشد و نموف می کنند و کشاورزی بار دیگر رونق میگیرد و از سوی دیگر در باور سنتی زرتشتیان هنگام آفرینش آسمان از سوی خداوند است و به همین انگیزه برای بزرگداشت آن جشن و شادی برپا می شود، جشن خوردادگان روز خورداد از ماه خورداد، چهار خورداد خورداد نام چهارمین روز از ماه خورداد است. این واژه در عوستا به صورت هنور و تا تامده است و نام یکی از امشاست است که رسایی و کمال معنی می دهد. نیاکان ما روز خورداد از ماه خورداد را جشن می گرفتند و در این روز به سرچشمه ها و رودخانه ها و کنار دریاها می رفتند و نیایش به جای می آوردند و اهورامزدا را ستایش می کردند. اکنون زرتشتیان در سالن ها و نیایشگاه ها حضور می و پس از نیایش و ستایش اهورامزدا جشن خوردادگان را گرامی می دارند و به شادمانی می پردازند. مراسم نیایشگاه ستیپیر روز اشتاد از ماه خورداد 24 خرداد. خورداد ستیپیر نام زیارتگاهی است که در نزدیکی مریم آباد یکی از محلهای زرتشتی نشین یزد واقع شده است بنایی قدیمی به صورت قلعه است که آثار چهار برج در چهار سوی آن هنوز باقی است در زمانی نه چندان دور این بنا در ریگزار کناره کبید یکی و تنها قرار داشت ولی اکنون گسترش شهرسازی در یزد ستیپی را در محدوده شهر یزد جای داده است در روز اشتاد از ماه خورداد گروه کسیری از زرتشتیان استانی یز و دیگر شهرهای ایران در این نیایشگاه حضور میابند تا زن آشنایی دید و بازدید و با خبر شدن از حال همدیگر در فرصتی مناسب نیایش به جای آورند و اهورامزدا را سپاس گویند. ساختمان ستیپی را اتاقها و تالارهای تو در تو به وجود آورده است. در یک سوی این ساختمان جای اصلی نیایشگاه واقع شده است. این محل اتاقی است که دو اتاقی کوچکتر در دو سوی آن قرار دارد و در یک زل آن سکویی وجود دارد. روی این سکو چراغ‌هایی که با روغن مایه میسوزد قرار دادند و در کنار آن نیایش کنندگان اود میسوزانند و چوب صندل و کندر براتش می نهند تا بوی خوش پراکنده شود و در کنار آن اهورا را نیایش و ستایش کنند. سیرود و آش رشته از است که بعضی از خانواده ها در این نیایشگاه تهیه می کنند. و با حضور خیشان و دوستان خود پذیرایی می شون. آنها این روز را در نیایشگاه ستی پیر با شادی به پایان می رسانند. مراسم نیایشگاه پیر سبز چک چک روز اشتاد تا انارام از ماه خورداد 24 تا 28 خورداد. نیایشگاه پیر سبز که به آن چکچکو هم میگویند در فاصله حدود 65 کیلومتری شمال غرب یزد و در دامنه کوه آهکی چکچک واقع شده است. گرد همایی زرتشتیان در پیر سبز از روز اشتاد در ماه خورداد شروع می شود، و تا روز انارام به مدت پنج شبان روز ادامه یابد. بسیاری از زرتشتیان از سراسر سر ایران و گروهی نیز از کشورهای دیگر در این زمان به نیایشگاه پیر سبز می آیند. پیر در دامن یک کوهی با شیب تند قرار دارد و برای رسیدن به نیایشگاه باید مسافتی از سر و شیبی کوه را بدون وسیله و با پای پیاده طی نمود خیراندیشان زرتشتی ساختمان هایی را برای اقامت همکیشان خود در پیر سبز ساختند که خیلی نام دارد. بیشتر شهرها و روستاهایی که زرتشتیان در آن ساکن هستند برای اقامت خود خیلی هایی در پیر سبز دارند. هر خیلی چند خانواده را می تواند در خود جای دهد. کسانی که قصد دارند بیش از یک روز در پیر سبز بمانند، وسایل و خوردنی های مورد نیاز خود را با خود میآورند. مکان نیایشگاه بالاتر از خیلی وجود دارد. این محل را در فرورفتگی تراشیده شده در سنگ کوه به وجود آوردهاند و در دیواری سنگی یک سوی نیایشگاه محلی وجود دارد که روییدنیهایی مانند پر سیاوشان مورد و انجیر کوهی رشد کرده است و آب قطر قطر از شکاف سنگ ها برون می ریزد و در داخل حوز سنگی زیر آن ذخیره می گردد. در میان نیایشگاه محلی وجود دارد که روی آن آتشتانی قرار دارد و آتش در آن افروخته می شود تا نیایش کنندگان اود به سوزانند و کندر و چوب صندل بر آتش بگذارند. و فضای نیایشگاه را از بوی خوش عطراگین سازند زن و مرد و پیر و جوان در هنگام نماز خواندن در گرداگرد نیایشگاه می‌ایستند کلاه یا روسری سفید بر سر می‌نهند و بخش‌هایی از اوستا را زمزمه می‌کنند و خداوند جان و خرد را سپاس می‌گویند پس از نیایش و ستایش احورا مزده که در نیایشگاه انجام میگیرد دید و بازدید و احوال پرسی خانواده ها ادامه می آبد. در بعضی از خیله بزرگترها خاطرات افتخار آفرین گذشته ها تعریف می کنند و به کوچکترها پند و اندرز می دهند. و در برخی از خیله ها اندیشمندانی که در پیر سعب سوزور دارند در موضوعهای گوناگون فرهنگی، اجتماعی و علمی سخنرانی می کنند و به کارگیری آموزش‌های پیامبران ایرانی اشو و زرتشت را در زندگی سفارش می کنند. در برخی دیگر از خیله ها اربونه یا دف زدن و شادی, شادی کردن تا پاسی از شب ادامه می یابد. که و دختری که به تازگی نامزد زد شدند و برای نخستین بار و به اتفاق خانواده های خود در مراسم پیر سبز شرکت می کنند، باید جعبهای از نقل و شیرینی که روی آن را با زورق سبز رنگ پوشاندهاند با خود داشته باشند. در یکی از روزها خیشان و آشنایان جمع می شوند و نوعروس و تازه داماد را با عربونه و کف زدن و شاد باش گفتن تا پای نیایشگاه همراهی می کنند. در محل نیایشگاه، زورق را از روی جعبه کنار میزنند و برای شادکامی عروس و داماد نقل و شیرینی را به همه می دهند. مراسم نامزدی و صدر پوشی هم گاهی در پیر سبز برگزار می شود. چون سخن از نامزدی و ازدواج به میان آمد، در این قسمت آداب و رسوم آن را در میان زرتشتیان شرح می دهیم. از نوروز تا نوروز پژوهش بنیگارش کوروش نیخنام کاری مشترک از مجله اینترنتی آوای بوف و تولید کتاب‌های صوتی پرشنگ با همکاری آوای بوف و پرشنگ پرشنگ بوک دات کام و آوای بووف دات کام آین زرتشتیان ازدواج یکی از کارهای پسندیده در آیین زرتشتیان است و سرباز زدن از آن از گناهان بیشمار به شمار میآید. پیامآور ایرانی زرتشت از پسران و دختران جوان میخواهد با یکدیگر ازدواج کنند و هر یک بیشتر از دیگری کار نیک انجام دهد. در سرود پنجم از هات 53 گاتاها آمده است ای نو عروسان و ای پسران جوان اینک شما را راهنمایی میکنم و آگاه میسازم اندرز مرا به گوش جان بشنوید و به یاد داشته باشید با اشتیاق برای رسیدن به یک زندگی شاد و خورم و با عزت بکوشید. هر یک از شما باید در راستی و کردار نیک از دیگری پیشی جوید و از این روش زندگی خود را خوش و خورم سازد. در ایران باستان مردی که زن داشت و دارای فرزند بود بر مردی که زن و فرزند نداشت برتری داشت. و از احترام بیشتری برخوردار بود در اوستا زنی که شوهر دارد به نام نمانو پنتی و مردی که زن اختیار نماید به نام نمانو پیتی نامیده می شود نمانو به معنی خانه و خانواده میباشد و قسمت دوم هر دو واژه رئیس و رهبر معنی می‌دهد این واژه ها در تفسیر پهلوی به صورت کدبانو و کدخدا آمده است زناشویی در بین زرتشتیان به ترتیب شامل خاستگاری، نامزدی گواهگیری جشن عروسی و پاتختی میباشد در آین زرتشتی به جز شرایطی خاص طلاق وجود ندارد همچنین هر مرد یا زن باید یک همسر برای خود برگزیند بنابراین لازم است پسران و دختران از روی خرد و آگاهی همدیگر را انتخاب نمایند گزینش درست آنها پشتوانه تداوم زندگی مشترکشان باشد هنگامی که خانواده های زرتشتی در دید و بازدیدهای خانوادگی جشن ها و مراسم دینی و گرد همایی در نیایشگاه ها شرکت می کنند پسر و دختری که قصد ازدواج دارند با یکدیگر آشنا می شوند و پس از آنکه نظر موافق خانواده های خود را به دست آورند مراسم خواستگاری انجام می شود خواستگاری از سوی خانواده های پسر و دختر یکی از روزهای ماه برای خواستگاری انتخاب می شود. مادر، خواهر و چند نفر از بستگان داماد برای طلبیدن عروس به خانه آنها می روند. آنها با خود شاخه از سرف، دستمال سبزی که داخل آن یک عدد انارشگیری نهادند و مقداری برگ آبیشند و دانه های سنجد ریختند با قند سبز به همراه میبرند. قنده سبز نیز کل قندی هستش که با زرورق سبز رنگ روی اون تز میکنند می کند. رنگ سبز در آینه زرتاشتی نشان زندگی، بالندگی و سرسبزی است. نخوس با آینه و گلاب ورود مهمانان را خوشامد آمد می گویند. آنگاه همه با شربت و شیرینی پذیرایی می شوند. آب هل نیز یکی از نوشیدنی‌های گرم است که در مراسم خاستگاری به میهمانان می‌دهند. برای تهیه آب هل به آب جوش مقداری شکر و پودر هل می‌افزایند و مانند چای از همه پذیرایی می‌کنند. خانواده داماد و عروس درباره‌ی باره سخن می‌گویند. پس از رضایت کامل پدر و مادر عروس، مادر داماد چند شاخه کوچک سرف را به دست پدر و مادر عروس می دهد و از آنها سپاسگذاری می نماید. آنگاه دستمال سبز را می گوشاید. انار شیرین و شاخه از سرف را به دست عروس آینده خود می‌دهد. قند سبز را در دامان او میگذارد و مقداری برگ آویشان را بر سر و رویش می ریزد. روی او را می و برای او در زندگی آینده سبز بختی، شیرین کامی و بهروزی آرزو می کند. عروس عروس و داماد با هم و با صدای بلند حابی رو شباش می گویند و برای عروس و داماد شادی آرزو میکنند. خواهر یا یکی از بستگان داماد گره از نخهای دلوک باز می و همه نقل را از داخل آن برمیدارند و با شیرین کامی خواستگاری را به پایان می‌برند. نامزدی مدتی پس از خواستگاری مراسم نامزدی انجام می‌گیرد. در گذشته مراسم نامزدی شامل دو برنامه جدا از هم بوده است. در آغاز خانواده داماد که حداقل هفت نفر بودند به همراه داماد و دهموبت محل به خانه عروس می‌رفتند. در نزدیکی خانه عروس دهموبت دست داماد را می‌گرفت و در جلو حرکت می‌کردند. یکی از بستگان چراغ یا لاله روشن در دست داشت و روشنایی را با داماد به خانه عروس می برد. جوانی دیگر سینی مسی را روی سر میگذاشت و به دنبال آنها حرکت می کردند. داخل این سینی، قند سبز، کاسه نبات، نقل و شیرینی، برگ آویشن، آینه و گلاب با لباس کامل برای عروس و حلقه تلایا یا ازدواج می نهادند روی آنها را با پارچه سبز مخصوصی می پوشندند و همه با شادی به خانه عروس وارد می شدند در آغاز آینه و گلاب به همه داده می شد و همه با شربت و شیرینی پذیرایی می شدند پس از آن ده موبت در جای خود نیست با نام و یاد اهورا مزدا و با صدایی رسا نوع عروس را صدا می کرد و از او می پرسید که این پسر را به عنوان نامزد و همسر خود میپذیرد این پرسش هفت مرتبه انجام می گرفت و هر بار یکی از بانوان شرکت کننده به ده موبت پاسخ می داد. او جمله مانند عروس رفته از گل بچیند، عروس رفته از, از ششمه آب بیاورد را به زبان میآوردند. تا اینکه در مرحله هفتم که ده موبت سؤال می کرد عروس به او آری پاسخ می‌داد. داد بستگان حابی رو شاباش و پس از آن داماد حلقه را در انگشت دست عروس می کرد. عروس و داماد نقل سفید را در دهان یک دگر می و نامزد هم می شدند. به پدر و مادر عروس و نیز به ده موبت قند پیش داده می‌شد. و بقیه هدایا برای نوروز بود مرحله دوم نامزدی چند روز پس از آن انجام می‌گرفت حلقه و هدایا به همون شیوه مرحله نخست نامزدی از سوی خانواده عروس به خانواده داماد برده می شد و مراسم نامزدی کامل میگشت. مرحله دوم نامزدی چند روز پس از آن انجام می گرفت. حلقه و هدایا به همراه شیوه مرحله نخست نامزدی از سوی خانواده عروس به خانواده داماد برده می شد و مراسم نامزدی کامل میگشت. اکنون زرتشتیان در مراسم نامزدی تنها به خانه عروس میروند. خانواده داماد پیشکش ها و حلقه نامزدی را با خود به خانه عروس میبرند و از سوی خانواده عروس نیز هدایایی برای داماد با حلقه زناشویی فراهم می شود. پسر و دختر جوان حلقه ها را به دست یکدیگر دگر می کنند و با هم نامزد می شود. در باور برخی زرتشتیان زمان نامزدی تا سیسه روز و حد اکثر تا سه ماه ادامه می و در این مدت عروس داماد و خانواده های آنها رفت آمد دارند تا با اخلاق و رفتار هم بیشتر آشنا گردند و چنانچه در زمان نامزدی تاریخ برگزاری یکی از جشن ها فرارد داماد هدایایی به نام جشنی برای عروس به خانه آنها میبرد و در همان زمان هدایایی نیز از سوی مادر عروس به داماد داده میشود. پس از نامزدی مراسم عقد کنان انجام میگیرد که زرتشتیان به این مرحله گواهگیری میگویند. گواهگیری مراسم گواهگیری در بیشتر شهرها و روستاها مانند گذشته به شکل سنتی برگزار می شود. این مراسم در خانه، تالار آتشکته و آدریان انجام می شود. عروس لباس سبز می و تور پارچه سبز رنگ روی سر می اندازد. داماد در کنار او می‌نشیند. او نیز کلاه مخصوصی به رنگ سبز بر سر دارد و بر روی شانه راست داماد، چادر شب یا دستمال سبز انداختند. و روی آن کشتی قرار دارد. در جلوی روی آنها سفر ای گسترده می شود که دو سوی آن را لاله یا چراغ روشن میگذارند گلدان های گل و صرف، نقل و شیرینی سینی پر از لروک و آنچه در سفره جشن خانی و صدر پوشی نام برده شد برای تداره که مراسم گواهگیری نیز فراهم میگردند پشت سر داماد برادر یا نوجوانی از بستگان داماد نیست. این نوجوان نیز دستمال سبز بر سر میبندد و سینی کوچکی را بالای سر داماد نگه می‌دارد. درون این سینی کتاب اوستا، دستمال سبز، یک عدد انار شیرین، یک عدد تخم مرغ، یک قیچی، مقداری شیرینی و نوق با برک های آویشن و دانه‌های سنجد میگذارند بستگان و آشنایان عروس و داماد نیز حضور دارند. حداقل هفت نفر باید در گواهگیری شرکت کنند تا شاهد و گواه بر این قسمت از پیوند زن شوی باشند. موبد با لباس و کلاه سفید به جمع گواهگیران می و در کنار داماد قرار می گیرد. موبد با سرودن قسمت هایی از عوستا مراسم را شروع می کند. و پس از آن با گویش پارسی از عروس چنین می‌پرسد. امروز که انجمن پیوند به بروشندین و مزدهی سنی که پیوند نیک زناشویی زرتشتیان است. در اینجا برپاس من که موبت هستم به گواهی دادار، رایومند و خرحمند به گواهی امشاسپندان پیروزگر، به گواهی مهرستروش و, و رشنراست به گواهی فروهر عشوزرتش اسپنتمان، به گواهی وحان این بعض از شما نام عروس دخت نام پدر عروس را میپرسم که بهدین یعنی نام داماد پور یعنی نام پدر داماد را به داد و آین دین مزدهی به همتنی و همروانی به همسری خود میپذیرید در سومین مرتبه عروس بلی میگوید و شرکت کنندگان با شادی ها و شاباش میگویند و کف میزنند پس از آن موبد از داماد چنین میپرسد از شما نام داماد؟ پوره نام پدر داماد؟ میپرسم که بهدین نام عروس؟ دخت نام پدر عروس را به داد و آین دین مزدعی سنی به همتنی و همروانی به پادشاه زنی یعنی زنی که کدبانو و رئیس خانواده باشد به همسری خود می داماد نیز در پاسخ موبد بله میگوید و باز هم شرکت کنندگان حابی رو شباش موبت موبد ادامه می به خوجستگی و فرخوندگی من و همه وهان این انجمن از ارمزد توانا آرزومندیم که به این پیوند زناشویی، پایندگی و استواری و مهر و خوشی و شادکامی و با افسونی فرزندان نیک و خاصه فرابان و دیرزی و شنی و سرانجام نیک ارزانی بدارد پس از آن موبت اندرس های را به عروس و داماد می دهد که باید آنها را با هم در زندگانی بکار گیرند تا به عنوان زن و شوهر زرتشتی شناخته گردند. پندها را موبت چنین ادامه می دهد. اینک چند اندرز شای دینی بشنوید و در زندگانی خیش به بندید تا موجب خوشنودی اهورامزدا و نیکبختی شما باشد نخست ستایش و نیایش دادار اورمزد است چرا که ما را از داد و دهش خیش از هر گونه ارزانی داشته است اهورامزدا را دادار هربست آگاه یعنی آگاه بر همه چیز دانید و به آین دین به اندر پنجگاه به پرستش ایستید دوم یامبری عشو زرتشت بی بیگمان باشید و به دین به استوارمانی، مانید هر آینه به عشویی و راستی گرایید و به اندیشه و گفتار نیک در جهان زیوید سوم به روانشادی درگذشتگان و دستگیری نیازمندان در یشتن گاهنبار کوتاهین نکنید در پنجه و فروردینگان که روز ویژه هماروانان است از درون با میز و آفرینگان و آنچه دسترس باشد به جا آرید تا هماروانان خوشنود شوند و درود فرستند درون است که زرتشتیان در ستایش خداوند متعال و آتش بر خوراکی ها خوانند و آنجا متبرک سازند و میز چیزهای است که در جشنها سر سفره می گذارند. چهارم، آین روزه و سال پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و خویشاوندان را انجام دهید و از دستگیری دیری بینوایان آنچه دسترس باشد بکوشید. چکه خوشنودی مینوان کار و کرفته گیتیان است پنجم، گامی بدون صدره و کشتی منهی و فرزندان را در ده سالگی صدره پوشانید. و، کشی بندید تا اندر همه گاه به داد و آین دین به به ستایش دادار ارمزد ایستند. ششم از پدر و مادر و استاد سپاسدار باشید و گرامیشان دارید چه که خوشنودی ارمزد خوشنودی این ستن است. هفتم از روزهای مهر و اشتاد و ورحرام یکی را برگزینید و اندر آن روز به ستایش ارمزد به داد و دهش پردازید. تا احورا مزدا نگهبانتان باشد و از هر گناه و بدی بازتان دارد. اینک روزی را که برگزیدید نام ببرید. در پاسخ به موبد در این قسمت داماد یکی از روزها را انتخاب می کند و نام می برد. و از پس او باید در هر ماه و در روزی که در هنگام گواهگیری برگزیده است کارهای نیک انجام دهد. نیازمندان را دستگیری نماید و به اندازه توانمندی خود دیگران را یاری نماید. موبت زمن اعلام نام این روز با صدای بلند اندرز خود را ادامه می دهد. هشتوم. در زندگانی باید راهنمای دانایی را برگزینید تا در همه کارها از او دستور خواهید چکه دانش پراکنده است و کار بی‌رهنمونی دانا بی بیفرجام نباشد اینک دانای گزیده خویش را نام ببرید و در این قسمت داماد یکی از بستگان خود را نام میبرد که به دانایی و فرهیختگی او یقین دارد و پس از آن در زندگی مشترک خود چنانچه به مواردی برخورد نماید که تصمیمگیری برای او دشوار باشد از این شخص نظر خواهی می نماید. موبت نام این شخص را که داماد انتخاب نموده به حاضران اعلام می نماید و اندرز خود را به عروس و داماد اینگونه ادامه میدهد. نهم اورمزد هروست توان یعنی توان بر همه چیز که مردم را به نیروی دانایی و گویایی از دیگر آفریدگان گیتی برتر آفرید دادش یعنی قانونش مردم دوستی پس مردم را میا زارید نه به منشن نه و نه یعنی اندیشه، گفتار و کردار بیگانه ای که فرار سجای جای کش دهید، نیکان را از گرسنگی و تشنگی و سرما و گرما نگه دارید، با زیردستان و کهتران مهربان باشید، سالاران و مهتران را گرامی دارید و به داد و آین امشاسپندان که فروزگان ارمزد پاکند راه بویید تا دادار ارمزد از شما خشنود باشد. در این قسمت موبد اشاره می کند به نام امشاسپندان ششگانه و آینی که مربوط به آنها هستند و از عروس و داماد میخواهد تا آنها را نیز در زندگی به کار گیرند. و آین بهمن امشاسپند آشتی و نیکندیشی است. کین ورز و رزم کام نباشید. نیک خواه و به منش باشید. بدی مکنید. پیرامون بدکاران مگردید. دانش اندوزید و خیرتمندی پیشه کنید. فرهنگ گسترید و دژمنشی براندازید. با دشمنان به داد کوشید و با دوستان نیکی ورزید. چهار پایان سودمند را خوب نگهداری کنید. کار بی اندازه مفرمایید. و آین اردی بهشت امشاسپند راستی و پاکی است. درون و برون خود را پیوسته پاک نگاه دارید. از کجی و ناپاکی دوری کنید. عشویی ستایید و به داد آشا راه پویید. چکه راه در جهان یکی و آن عشویی است به منش نیک بیاندیشید به کشن نیک بکوشید به کنش نیک انجام دهید با همدیگر یک دل و یک زبان باشید از دروغ و سوگند و جادویی گریزان باشید داد و آین شهری بر امشاسپند نیرومندی و خیشکاری است آن راه سروری و توانگری کوشا باشید رهبران و سروران دادگر را فرمان برید و گرامی دارید از فرارانی یعنی حلال و درستگاری خواسته اندوزید پیش و کوشا و کارازاد باشید از بیکاری و گدایی دوری گذینید برخواسته کسان دست میازید و رشک مبرید زر و سیم، مس و روی، آهن و ارزیر و برنج را پاک نگه دارید تا زنگ نزند و به کاراید دادو آین سپندارمز امشاسپند، فروتنی و مهربانی است اندرگیتی آزاده و فروتن باشید با یک دگر دوستدار و مهربان باشید خودپسند ما باشید خوشبین باشید خیشان موسمان را ننگ مدانید و از خاسته خیش یاریشان دهید آموزشگاه و بیمارستان و دیگر بنیادهای نیک نهید و چون زمین سود بخش و بردبار باشید زمین را پاک و آبادان دارید سوراخ خانه حشرات زیان بخش را ویران کنید و پلیدی و نسا اندر زمین نهان مدارید. دادو آین خورداد ام شاسفند خورمی و آبادانی است. دل خود را خورم و تن خود را پاک دارید. چه پاکی تن اشروی روان است. ناسپاسی مکنید و اندوهگین مباشید. گیتی را به چشم نیک ببینید و به دادار است خورسند و سپاسدار باشید. آبادی سازید و شادی افزایید. آب که سبب خورمی و آبادانیست همیشه پاک دارید. پلیدی و نسا اندر آب میف تن و جامه را در آب روان مشویید. کاریز ایجاد کنید و زمین خشک را برومن سازید. داد و آین امرداد امشاسفند، تندرستی و دیرزی و شنیست. تن خود را درست و توانا دارید. از دروغ و پلیدی دوری کنید. خانه و جامه را پاک و بیالایش دارید. آب ایستاده و راکت را بخش کنید و جای آن کشت زار کنید. دارو درخت افزایید، درخت جوان مبرید بر میوه نارسیده مچینید دارو و درمان به ارزانیان دهید و دردمندان و افتادگان را پرستاری کنید. موبه در پایان یک بار دیگر از عروس و داماد آزادی گزینش یکگر را در پیوند زناشویی سوال می کند. و پاسخ بلی می گیرد و آنگاه با سرودن اوستای تندرستی دانه های جو و برنج و برگهای آویشان بر سر و دوش عروس و دوماد می ریزد و برای آنها تندرستی، دیرزی و شنی و خوشبختی آرزو می کند پس از گواهگیر فیشان و آشنایان و عروس و داماد و بستگان آنها شاد باش می گویند و با دادن آینه و گلاب و پخش شروت و شیرنی و لروک بین همه مراسم گواهگیری پایان می پذیرد جشن عروسی زرتشتیان به جشن عروسی سور نیز میگویند در گذشته خانواده عروس و داماد جداگانه میهمانی عروسی را برگزار میکردند خانواده عروس آشنایان و خشان خود را در خانه یا محل مناسبی دعوت مینمود. خانواده داماد نیز به همین صورت مجلس جشن شادی برپا می‌داشت. هنگام برود به محل جشن عروسی و دامادی با آینه و گلاب و نقل و شیرینی از میهمانان پذیرایی می‌کردند و به آنها خوش آمد گفته می شود. بوی عود و چوب صندل که بر آتش نهاده شده بود فضای جشن را اطراگین می کرد. در جشن عروسی و دامادی نسبت به توانایی خانواده ها با شربت و شیرینی میوه و شام از میهمانها می‌شد. در فرصت های مناسب توسط هنرمندان، ترانه و شادمانی در جشن عروسی برپا می در بعضی از روستاها، سرنا، کمانچه و اربونه از ابزار اجرای موسیقی در عروسی ها بودند. آتشدانی که دود و بوی سوختن اسفند و کندر و چوب صندل پراکنده می کرد به وسیله دهموبد در مراسم به حرکت در می آگد. هنگامی که پاسی از شب میگذشت گروهی از سوی خانواده داماد به خانه عروس می آمدند تا او را با خود به خانه داماد ببرند آنها پذیرایی می سپس با شربت و شرینی خواهر داماد دست عروس را می گرفت و آماده عروس کشانی شدند. در ضمن آماده شدن عروسی برای حرکت بیت هایی از نیز از سوی خانواده داماد با آهنگ مخصوص خوانده می شد. یکی از آنها چنین است ما آمدیم ما آمدیم. خیشان داماد آمدیم، ما آمدیم، ما آمدیم، ما آمدیم، عروس بریم، گرمی دهیدش میبریم، ورنه به نازش میبریم، سر و روی عروس را با پارچه سبزرنگی میپوشاندند. مرد میانسالی به نمایندگی از سوی داماد دستمال بزرگ یا چادر شب بر کمر میبست که در آن تعدادی سکه همراه با مقداری برگ برگابیشن خوش و دانه های سنجد و بادام نهادند. در جلوی عروس و از سوی اونیز نمایندهی به همان شکل دستمال خالی بر کمر میبست و حرکت می میکردند. خیشان داماد در حالی که رویشان به طرف عروس و همراهان او بود، در جلو حرکت می کردند و اربونه می و با شادی شرهاي می در هر چند گامی که عروس و همراهان به پیش می نماینده عروس همه را از حرکت باز می داشت تا پایند از یافت کنند. نماینده داماد مقداری از هدایای داخل دستمال را به نماینده عروس می پرداخت. همه با هم حبیر و شباش می و حرکت هر دو گروه ادامه می یافت و عمل بارها تکرار میگردید. هنگامی که از کوچه عبور میکردند برخی از همسایه‌های عروس در روبروی خانه خود جلوی پای عروس آتش می‌افروختند. و با چوب بلندی مسیر حرکت عروس و همراهان او را میبستند در این هنگام سوی سوی خانواده داماد کلغند سبز یا سفید به صاحب خانه هدیه می شد تا چوب را از سر راه عروس بردارد عروسکشانی تا خانه داماد ادامه می یافت. داماد از خانه خارج می گردید و دست عروس را می گرفت و او را به خانه دعوت می کرد ده موبد دست دیگر داماد را می گرفت و آن را با خود به داخل خانه میبرد در میان حیات خانه آتش افخت شده بود و دهموبد سه مرتبه عروس و داماد را به گرد آتش میچرخاند و پس از آن با میهمانان به داخل ساختمان میرفتند و در اتاقها مینشستند. داماد سکی به عروس پیشکش می‌نمود و دستمال سبز را از روی چهره او برمی‌داشت همه هامی رو شباش می‌گفتند و شربت آماده شده از قند و تخم شربتی میا و جشن عروسی را به پایان می‌رساندند اکنون نیز در بعضی از روستاها جشن عروسی به همین شیوه برگزار می‌گردد ولی در شهرهای بزرگ این جشن در یک تالار یا سالن و با حضور بستگان عروس و داماد اجرا میشود. در این جشن عروس و داماد با هم شرکت مینمایند و مراسم عروسی در یک محل برپا میشود. در بین زرتشتیان کرمان هنگامی که چند روزی از نامزدی گذشت عروس برای نخستین بار با خانواده خود به منزل داماد دعوت می‌شوند آنها از قبل آشرشته تهیه میکنند تا با خود به خانه داماد ببرند شیرینی دیگری به نام رشته برشته در برخی از خانواده ها تهیه می گردند برای تهیه این شیرینی آرد برنج را با مقداری آب مخلوط می کنند این مخلوط را از پارچه نازکی عبور می دهند و آن را در ظرفی می ریزند سپس انگشتان دست خود را در داخل این مخلوط فرو میبرند مقداری از آن را که به انگشتشان چسبیده است با حرکت دست بر پشت سینی مسی می ریزند تا شبکه رشته به وجود آید آنها را پس از خوش شدن در روغن داغ ماهیتابه میاندازند و پس از چند لحظه بیرون می‌آورند و روی آن را مخلوط پودر قند و هل میپاشند شیرینی رشته برشته را در سینی میچینند و روی آن را با پارچه سبز می‌پوشانند و با آش رشته چراغ روشن و برخی ظروف لازم به خانه داماد میبرند پیش از وارد شدن به خانه داماد آتش افروخته میشود و هدیه‌ای نیز از سوی مادر داماد به عروس تقدیم می‌گردد نخوس شربت و شیر به همه داده می شود و آنگاه مادر عروس آشه رشته را در بشقاب می و به همه می دهد هنوبندان. از رسم دیگر زرتوشیان کرمان هنو است شب پیش از عروسی، از سوی خانواده داماد، لباس، کفش، کیف عروس با آینه و شمدان و حنا به خانه عروس میبرند. هنه را یک روز قبل در آب گرم میریزند تا خیس خورده و رنگ بردارد. سپس آن را در کاسه چینی می و در میان آن یک عدد شم فرو می برند. این شم را پیش از وارد شدن به خانه عروس روشن می کنند. خانواده داماد با یک دسته گل یا یک سبد گل لوازم هنو را به خانه عروس میبرند. مادر عروس پیش پای خانواده داماد آتش می و شیرینی خوری نقره ای که در آن نقل و شیرینی وجود دارد و یا ظرف دیگری از جنس نقره به داماد پیشکش می‌کند. و ورود همه را به شادمانی خوشامد میگوید. همه با شربت و شیرینی و شام پذیرایی می شوند. آنگاه یکی از بستگان داماد کاسه هنا را به پیش همه میبرد و هر نفر کمی از آن را به کمک قاشق کوچکی بر کف دست خود می کند و آن را به کف دست ها مالد و سپس با دستمالی مالی هنا را پاک می کند. در گذشته هنا در حمام انجام می گرفته است. خانباته داماد کتیرا، صابون، هنا و بقیه لوازم را به همام می بردند. بستگانی که با آنها بودند، اربونه میزدند، ترانه می و شادباش می گفتند. در حمام پس از شستشوی بدن، هنا را به کف دستها می مالیدند و دوباره بدن را شستشو میدادند. در گذشته و برخی از روستاها و شهرها مراسم دستبوسی هم انجام می گرفت. بامداد با روز پس از عروسی، داماد به همراهی برادر بزرگتر، دایی و عمو و چند تن از بستگان به خانه پدرزن خود میرفت. نخوس به آنها آینه و گلاب داده میشد سپس با شربت و شیرینی پذیرایی میشدند داماد هدیه ای را به عنوان شیربها به مادرزن خود تقدیم می رمود و آنگاه دست روی پدر و مادر همسر خود را می بوسید و با همراهان به خانه خود باز می گشتند. پاتختی. پس از نیم روز روز پس از عروسی مراسم پاتختی انجام می‌گیرد در بسیاری از روستاها پیش از شروع پاتختی هنوز هم داماد را به سر آب روان می‌برند برای انجام این رسم کوهند، موبت به خانه عروس و داماد می آید و داماد را به همراه ده موبت و چند تن از مردان دیگر به کنار یکی از ششمه ها یا جوی آب روان می برد آنها با خود ظرفی از شیر که مقداری برگ آبیشن خشک شده در آن ریخت اند به همراه می برند. در کنار جوی آب روان، موبت لباس سپید می بوشد و به سوی روشنایی خورشید در کنار داماد می استد. داماد نیز کلاه سبز بر سر دارد همراهان در دو سوی جوی آب یا چشمه می موبد عوستای آبزور که بخشی از خورده عوستا که در ستایش آب سروده است را و پس از پایان اوستاخانی به خانه باز می گردند. در همان زمان عروس با چند بانوی دیگر به پشت با می روند عروس دولوگی که در آن برک های خشک آبیشند و دانه های سنجه در دست می گیرد. و هنگامی که داماد از کنار جوی آب روانه به خانه باز می گردد، مقداری از آبیشن و سنجد را از دلود بر و از پشت بام بر سر و دوش داماد می ویزد. مهمانان ها بیرو شباش می‌گویند و داماد با این حالت به خانه وارد می شبد. عروس و همراهان از بام خانه پایین میآیند و مادر داماد در پایین پله ها ای به عروس خود می دهد. پیش از آنکه مهمانان به مراسم پاتختی بیایند خانواده عروس ظرفی از شیر را فراهم می کنند و آن را با ساقه هایی از گیاه سبز مور یا همون چمن وحشی در کنار جویبارها رشد می و نقداری گلاب به خانه داماد می عروس و داماد در کنار هم مینشینند. و عروس انگوشتان یکی از پاهای خود را روی پای داماد می‌گذارد. خواهر عروس یا یکی از بستگان عروس انگوشتان پشت و کف پای عروس و داماد را با شیر و مو می‌شوید. سپس آنها را با گلاب شستشو می و آنگاه با حوله پاها را تمیز و خشک می و باور دارد که یک رنگی در زندگی عروس و داماد افزون و جاوید خواهد شد. و مهر و دوستی در پیوند زن و شوی آنها گسترش خواهد یافت او پس از شستن پای عروس و داماد با شیر و مور هدیه نیز از داماد دریافت یافت می دارد. در مراسم پاتختی خیشان و آشنایان عروس و داماد حضور می نخست به همه آین و گلاب سپس نقل و شیرینی داده می شود. از آنجایی که در آین زناشویی زرتشتیان محره مرسوم نیست جهیزی نیز با مفهوم واقعی خود وجود ندارد و پدر و مادر عروس باید تنها لوازم شروع زندگی ساده را برای دختر خود فراهم نمایند بنابراین آشنایان و خیشان در مراسم پاتختی با هماهنگی و مشورت با هم شرکت می کنند و بسیاری از اساس و لوازم مورد نیاز زندگی عروس و داماد را فراهم می نمایند نخوس مادر عروس و داماد هدایای خود را به عروس و داماد تقدیم می نمایند. آنها هدایا را در داخل سینی های گرد مسی میچینند و آن را با پارچه های سبز رنگی میپوشانند. پدیه ها شامل کله قند سبز، پارچه و زیورهای طلا و نقره است که مادر عروس به داماد و نزدیکان او تقدیم می کند و مادر داماد نیز به عروس و نزدیکان دل می میبخشد. این پیشکشها همراه با شاخه های صرف، برگ آویشن، برگ های آویشن، دانه های سنجد و نقل و گفتن هابیرو شاباش در دست‌های هر نفر قرار می‌دهند. مانگا نوبت به خیشان و آشنایان می رسد. آنها نیز هدایای خود را به عروس و داماد پیشکش کشمی و مراسم پاتختی را با ترانه و شادی ادامه می دهند و با خوردن شام و شاد باشگویی و آرزوی خوشبختی برای عروس و داماد مراسم پاتختی را به پایان می رساند. پرسه‌ی همگانی زرتشتیان پرسه همگانی را به یاد روان و فروهر درگذشتگان برپا می دارند. در باور آنها در چنین روزی گروه زیادی از ایرانیان باستان در راه پاسداری از ارزش‌های دینی و میهنی خود جان خیش را فدا نمودند نخستین روز از ماه تیر یکی از روزهای پرسه‌ی همگانی است در شهرهای بزرگ، در بامداد روز پرسه همگانی، زرتشتیان به تالار آدریان محل زندگی خود می روند. از سوی انجامن زرتشتیان یا ارگان دینی آن شهر، مراسمی انجام می گیرد. در این مراسم، افرادی حضور دارند که از یک سال پیش تا کنون، عضوی از اعضای آنها از جهان درگذشته است. بقیه زرتشتیان برای گرامی داشتن یاد و خاطره نیکوکاری درگذشتگان در جهان مادی در این مراسم شرکت می‌جویند. برخی از آنها به ویژه بانوان هایی از برگ سبز مرد یا شمشاد و یا مقداری عود، کندور و یا چوب صندل را با خود می‌آورند. بر روی میز صفری گسترده می‌شود. بر روی آن ظرفی از مخلوط قهوه و ظرف دیگری از بلورهای نبات می‌گذارند. مخلوط قهوه شامل پودر قهوه، مقداری آرد نخود و پودر قند و کمی پودر هل است. میوه و آجیر را هم در بشخاب می می‌کنند و آتشدانی از آتش را نیز در کنار آنها می‌گذارند و کندر و چوب صندل بر آتش می‌ریزند تا دود عطراین تولید کنند. زرتشتیان از نخستین ساعت بامداد در مراسم شرکت میجویند. هر نفر کمی قهوه و بلوری از نبات را برمیدارد. معبدان در این مراسم بخشی از گاثاها را میسرایند و سخنرانان دینی با یادآوری گوشههایی از پیام عشو زرتوش، مردم را به پیروی از آنها سفارش میدهند. در پس این روز پرسهی همگانی مردم در آرامگاه حضور می‌یابند و با نیایش خود به روان و فرهبر همه درگذشتگان درود میفرستند. در یز این مراسم در خانههایی برگزار می‌شود که فردی فوت شده را از یک سال پیش تا کنون داشتند. در این خانه نان خانگی، سیروغ و بقیه‌ی خوراکی‌های سنتی تهیه می‌شود و آنها را بر سر سفره قرار می‌دهند. قهوه و نبات و میوه را هم روی میز و در کنار آتشدان و گلدان مرد و گل قرار می دهند. در بامداد روز پرسه همگانی آشنایان بخیشان با در دست داشتن شاخه هایی از مرد و یا عود به تمام خانه هایی که در آن مراسم وجود دارد می روند. مرد و عود را در پسکم مز و در کنار سفره قرار می دهند. با خوردن چای یا شروت شادی را برای روان درگذشتگان آرزو می کنند. بعض از خانه خارج شده و به خانه های دیگر می روند. یکی از شربت هایی که در برخی از خانه ها در روز پرسه همگانی ماه تیر به میهمانان داده می شود، شربت خرفه است. برای تهیه دانه های کوچک گیاه خرفه را کاملا نرم می کنند سپس آن را در آب میریزند و به هم میزنند. شیره یه آمده را از پارچه نازکی عبور می تا پوست دانه‌ها جدا شود. به آنها مقداری شکر و کمی گلاب و یخ می و برای آشامیدن از همه پذیرایی می کنن.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 مراسم درگزشتگان زرتشتی در آین زرتشتیان مرگ انسان پایان زندگی او نیست بلکه آغاز زندگی مینوی برای روان درگذشته به حساب میآید به همین دلیل سوگ و عزاداری پس از درگذشت هر زرتشتی عملی ناپسند و ناروا به شمار میآید در باور زرتشتیان آدمی از اجزای گوناگونی مانند تن جان روان و فروهر تشکیل شده است تن که در زبان اوستایی تنو خوانده شود بدن و اعضای گوناگون آن است آیین زرتشت ارزش زیادی برای تن در زندگی برشمرده است تن را نباید آزار داد و نیازهایش را باید برآورده ساخت آن را همواره باید پاک نگاه داشت و هنگامی که جان از آن جدا شد، تن ارزش خود را از دست خواهد داد و فقط باید بگونه عمل نمون که محیط زیست برای زنده ها آلوده نگردد. در ایران باستان با شیبه های جسد مردگان را از بین بردند. گروهی که در کنار جنگل های انبوه زندگی می‌کردند، جسد مردگان را می سوزاندند. و کسانی که در مجاورت کبیر و ریگزار سکونت داشتند، جسد مرده خود را به خاک می سپردند. قومی که در مناطق سرسی و پوشیده از برف به سر می بردند، جسد مرده های خود را میان حصاری به نام دخمه در محلی بالاتر از محل سکونت، مانند بالای کوه قرار میدادند و جسد مرده خوراک کرکست ها قرار می گرفت. در گذشته زرتشتیان یزد، کرمان و برخی از نقاط دیگر ایران جسد های خود را در دخمه قرار می‌دادند. و این رسم را از نیاکان آریایی خود به یادگار داشتند که از مناطق سرد سیری به جنوب کوچ کرده بودند. ولی اکنون های خود را به خاک می‌سپارند. جان در زبان اوستایی اهو نام دارد و نیرویی است که تن را به حرکت و جنبش و فعالیت وامی دارد. و همواره با مرگ تن از بین خواهد رفت. روان از واژه اوستایی اورون گرفته شده است. و اندیشه، گفتار و کردار شخص را بنیان می‌گذارد. و شخص را به پیروی از آنها وا می‌دارد. فروهر که پیش از این نیز اشاره شد در اوستا فروشی نامیده می‌شود و به معنی پیشرفت و تکامل است. نیروی اهورایی و مقدس در نهاد انسان‌ها که هموار پاسبان روان است تا بین نیک و بد نیکی را برگزیند و اهورامزدا را خوشنود سازد. با همکاری روان و فر هر شخص نیکو می می‌شود و روان او در سرای نور و سرود بهشت جای خواهد گرفت. در هنگام مرگ جسم فر به نیروهای اهورایی خواهد پیوست. بر روان حالت جاودانی مینوی خود را آغاز خواهد کرد. رسم خاک سپاری زرتشتیان جسد مرده ها را در هنگام تاریکی شب به خاک نمی سپارند، و منتظر میمانند تا سپید دم روز آغاز گردد با مراسمی بسیار ساده بدون سوکباری و شیوند و در حالی که اغلب لباس کلاه یا روسری سفید بر تن دارند جسد مرده را به آرامگاه میبرند موبد و ده موبد به آرامگاه میآیند و بخشی از گاتاها را میسرایند پس از شستشو پارچه سفید دوخته شده بر تن مرده میکنند، جسد را بر تابوتی آهنی می‌گذارند و چهار نفر آن را بر دوش خود حمل می‌کنند و به محلی میبرند که قبر ها وجود دارد. اغلب زرتشتیان سعی می‌کنند در مراسم خاک سپاری شرکت جویند و به دنبال مرده حرکت نمایند. در پیشاپیش افرادی که مرده را حرکت می‌دهند، بزرگترین فرزند شخص درگذشته دستمال سبزی بر بازوی راست خود می‌بندند و حرکت می‌کند و این نشان می‌دهد که زندگی در این خاندان تداوم خواهد داشت. آتشدانی که دود عطر کندور و چوب صندل از آن برمیخیزد نیز در جلو حرکت می‌دهند. اکثر بانوان شرکت کننده در مراسم عود یا شاخه‌های مورد و شمشاد با خود می‌آورند. مرده را به خاک می سپارند و پس از آن مقداری آب بر روی خاک قبر می پاشند سپس عودها را می و شاخه های سبز بر آرامگاه می گذارند آنگاه برای شادی روان درگذشته نیایش می کنند و در پایان جمله عوستایی ایریستنام اوران و یز و منیده یا اشهگونام شیو بر زبان می آورند و سه بار اشم و هم ترجمه این جمله عوستایی چنین است به روان و فربهر پاک همهی درگذشتگان درود باد مراسم روز سوم روز سوم پس درگذشتن از جهان مادی مراسمی برای درگذشته انجام میگیرد در شهرهای بزرگ زرتشتیان این مراسم را در تالار آدریان یا آتشکده برگزار می کنند خیشان و آشنایان شرکت می کنند موبد با لباس سفید حضور دارد و قسمت از اوستا را می قهوه و نباس در مراسم وجود دارد و هر شخص در هنگام ورود یا پس از اینکه شادی را برای روان درگذشتگان آرزو می کند، به هنگام خارج شدن مقداری قهوه یا بلوری از نبات را بر می دارد. در شهر یزد و روستاهای مجاور آن، زرتشتیان مراسم سوم درگذشتگان خود را در خانه برگزار میکنند. پس از اینکه جسد مرده را از خانه خارج نمودند، محل قرار داشتن جسد مرده برای آخرین بار در خانه را تمیز میکنند. و گل سفید حل شده در آب می پاشند در بیرون خانه و پسکم مس نیز مخروط گل سفید و آب پاشیده می شود در پسین روز سوم خیشاوندان و آشنایان به خانه درگذشته میآیند. آنها به ویژه بانوان شاخه های از مورد یا اود را با خود میآورند. و آنها را در پسکم مس محل ویژه مراسم دینی می گذارند و باور دارند که رنگ سبز رنگی زندگی و بالندگی است و با این شیوه زندگی خورم را برای بازماندگان و شادی را برای روان درگذشتگان آرزو می کنند. موبد در مراسم سوم بوم شرکت می کند و بخشهایی از عوستا را برای شادی روان درگذشته می سراید. مراسم روز چهارم زردوشتیان ساکن در شهر و روستاهای یز پیش از آغاز سپیده دم روز چهارم به خانه درگذشته میآیند مردان و جوانان به ویژه در این مراسم شرکت می جویند. موبد اوستای گاه اوشهن را می سراید. اوشهن یکی از هنگام پنجگانه نیایش کردن است که پیش از آغاز سپیده دم انجام میگیرد. از شرکت کنندگان نیز کلاه سفید بر سر دارند و به سرودهای های اوستا گوش میدهند. هنگامی که سپیددم آغاز می گردد، ده موبد از شرکت کنندگان میخواهد تا رو به سوی روشنایی خورشید نمایند، نخست برای تندرستی و دیرزیوی خود و سپس برای شادی روان درگذشته نیایش کنند. پس از نیایش که با سرودن عوستای کشتی همراه است، موبد نیز بخشهایی از عوستا را در گاه هاون می سراید. هاون هنگام نیایش پس از سپید دم تا نیم روز. زرتشتیان باور دارند. هنگامی که روان هستن جدا می شود. پس از سه شبانه روز در سپید دم بامداد روز چهارم از چیموند عبور خواهد کرد. چینود در باور زرتشتیان روان درگذشتگان پس از مرگ باید از ای به نام چینود عبور کند. اگر روان از آن شخص کار باشد از این گذرگاه به راحتی عبور خواهد کرد و در سرای نور و سرود قرار می گیرد. و چنانچه روان مربوط به شخص گناهکار باشد از چینود عبور نخواهد کرد و در سرای سکوت و تاریکی دوزخ خواهد ماند. بنابراین، بهشت و دوزخ زرتشتیان حالت خاصی برای روان پس از مرگ است مراسم سیروزه روزه سال زرتشتیان برای روان درگذشتگان پس از پایان بامداد روز چهارم در روز دهم یا دهه و سپس روز سیم یا سی روزه و در هر ماه تا یک سال پس از تاریخ درگذشت شخص یا روزه مراسمی همانند قبل دارند مراسم سال درگذشتگان تا سی سال ادامه مییابد و در هر سال به یاد روان و فروهر آن شخص خیشان و آشنایان حضور می آبند. خوراکی های سنتی از قبیله، نان، سیرک، سیر و سداب، حلوای سن، حلوای شکر و چیزهای دیگر تهیه می شود. موبد و ده موبد شرکت می کنند. موبد با سرایش آفرینگان و شرکت کنندگان با نیایش خود به روان فروهر درگذشتگان درود می فرستند. مراسم پیر نارستانه نارستانه نام نیایشگاهی در یزد است که زرتشتیان از روز سپندارمز در ماه تیر تا روز آذر ایزد و تیر ماه برای نیایش کردن به آن محل می روند. این نیایشگاه در داخل در قرار گرفته است که سه طرف آن کوه واقع شده است و در حدود سی کیلومتری شرق یزد قرار دارد. برای رسیدن تا نیایشگاه، پس از پارک کردن اوتوموبیل ها باید قسمتی از راه را در لابلای کوها پیاده بالا و پایین رفت. در کنار پیر نارستانه چشمهی وجود دارد که آب آن از بارندگی تأمین می گردد و در استخری ذخیره می شود و به مصرف می رسد. در محل اصلی نیایشگاه درختی از مرد رشد کرده است و شاخه های آن از ساختمان خارج شده و منظره دلنشینی را به وجود آورده است برخی از زرتشتیان باور دارند که این زیارتگاه محل درگذشتن و جان باختن اردشیر ساسانی است زرتشتیان به مدت پنج روز در این نیایشگاه حضور می و با نیایش خود اهورا مزدا را ستایش و به روان و فروهر جان باختگان راه میهن ارزش های نیک انسانی درود می فرستند میدیو شهمگاه. دومین جشن گهنبار در سال میدیو است این گهنبار را از روز خور تا روز دی به مهر در ماه تیر برگزار می کنند واژه یابستای میدیو یعنی میان و واژه شم یعنی تابستان که هر دو با هم میان تابستان را معنی میدهد و از طرفی در باور سنتی زرتشتیان هنگام آفرینش آب از سوی اهورامزدا است زرتشتیان مراسم گاهمبار میدیو شم را در روزهای یاد شده با همان شیوهی برپا می دارند که در مراسم گاهمبار پیشتر اشاره شد برخی که در روستاها سکونت دارند، در خانه که همبار برپا می دارند و کسانی که در شهرهای بزرگ هستند، این مراسم را در تالارهای بزرگ برگزار می‌نمایند و اهورا مزدار را ستایش می کنند. تا نوروز پژوهش بنیگارش کوروشه نیخنام کاری مشارک از مجله اینترنتی آوای بوف و تولید های صوتی پرشنگ با همکاری آوای بوف و پرشنگ پرشنگ بوک دات کام و آوای بوف وردپرس دات کام جشن تیرگان سیزدهمین روز در هر ماه زرتشتیان تیر یا تشتر نام دارد. در ماه تیر هنگامی که روز تیر فرا می رسد، آن روز را جشن تیرگان می نامند. تیر در عوستا تیشتریه و در پهروی تشتر نام دارد. در نوشته های عوستایی و غیرگاتاهایی تشتر یا تیر نام است که به باریدن باران کمک می کند. همچنین در باور ایرانیان نام ستاره‌ای است که هرگاه در آسمان پدیدار شود، موجه باریدن باران را با خود می‌آورد. سبب پیدایش جشن تیرگان نیز ماننده بسیاری از آداب و رسوم با رویدادی سرنوشتساز در تاریخ زندگی ایرانیان باستان هماهنگی یافته است. گروهی این جشن را یادگار پیروزی ایرانیان بر تورانیان می‌دانند. که در زمان پادشاهی منوچهر، سپاه افراسیاب قسمت زیادی از سرزمین ایران را اشغال کرده بودند و قرار آشتی بر شد که از سوی سپاه ایران از تبرستان تیری رها شود و در هر جا بر زمین فرود آید مرز ایران و توران تین شود. بنابراین آرش، جوان دلیل ایرانی با تمام توان تیری را از کمان رها ساخت این تیر در کنار رودخانه جیهون درختی نشست و مرز ایران و توران مشخص شد. باز در زمان ساسانیان و پادشاهی فیروز هفت سال در ایران خوش سالی روی داد و در چنین روزی مردم روی به بیابان آوردند و با نیایش خود از پروردگار آرزوی باریدن باران کردند. و پس از آن بارش باران شروع شد و ایران از خوشتاری رهایی یافت. از آن سال به بعد ایرانیان در چنین روزی در یکدیگر آب می پاشند و شادی می کنند. اکن و جشن تیرگان را برپا می دارند. در کرمان و بم آن را تیرو و جشن هم میگویند. روز پیش از جشن تیرگان خانه و بیرون آن را جارو و تمیز می کنند و همه اهل خانه نیست سرطن را شستشو می دهند. لباس نو می پوشند و شادی می کنند. بانوان و دوشیزگان نخ تیر و باد را به مش دست می بندند. این نخ از جنس ابریشم و نازک است، که مجموعهی تابیده شده از نخهای رنگی و عمومن هفت رنگ است که شاید نشانه رنگهای رنگی کمان در آسمان باشد. این نخ را در کرمان و بم تیرو میگویند و آن را در روز جشن تیرگان به مش دست و گاه به انگشت دست میبندند و آن را تا روز باد به دست دارند. در روز باد، ده روز بعد، نخاب شمی هفرنگ را از دست باز می‌کنند و در جای بلندی مانند پشت بام می‌ستاند و آن را به باد می‌دهند در کرمان کوچکترها این کار را با خواندن این شعر انجام می‌دهند تیر برو باد بیا غم برو شادی بیا مهنت برو روزی بیا خوشه‌ی مرواری بیا از بامداد روز جشن تیرگان، زرتشتیان سعی دارند در یکدیگر آب بپاشند. کسانی که در روسته زندگی می کنند به کنار چشمه یا جوی آب روان می روند و با شادی بیشتری آب در یکدیگر می پاشند. در شهرهای بزرگ، بعضی از خانواده ها به خارج از شهر می روند. محلی که آب فراوان تر وجود داشته باشد تا مراسم آبریزان را در کنار آب به آسانی انجام دهند. چک و دوله یکی دیگر از مراسم روز جشن تیرگان فال است که زرتشتیان به آن چک و دوله میگویند زرتشتیان یک روستا یا محله روز قبل از جشن تیرگان دوشیزه میان میانسالی را برمیگزینند کوزه سفالی سبز رنگ و دهانگوشادی به او میدهند این کوزه دوله نام دارد او در دوله آب پاک می ریزد این آب را بیشتر از سرچشمه قنات برمیدارد و دستمال سبز ابریشمی بر روی دهانه آن می‌اندازد. آن را به پیش همه می‌برد تا کسانی که مایل هستند، شیعی کوچک مانند انگشتر، سنجاق سر، موگیر، سکه و مانند آنها را در آب دولبی اندازند و در دل خود نیتی داشته باشند. دوله را به زیر درخت سبز می‌برد. این درخت اغلب درخت مرد یا سر بست. در روز جشن تیرگان همیه افرادی که در دوله شعی انداختن و با خود نیت و آرزویی دارند گرده هم می آین. دوشیزه مسئول دولت آن را از زیر درخت به میان جمع می آبرد. در فادگیری چک و دوله بیشتر بانوان شرکت دارند و سال که در میان آنها حضور دارند با صدایی بلند دو بیتی هایی می سراین. سپس دخترک دست در دوله می میکند و یکی از چیزهای داخل آن را بیرون میآورد و صاحب آن متوجه میگردد شعری که خوانده شده است مربوط به نیت و آرزوی او بوده است مراسم پیربانو روز مهر تا روز ورهرام در ماه تیر 13 تا 17 تیر ماه نیایشگاه بانوی پارس در باور برخی از زرتشتیان محل جان و ناپدید گشتن شه بانوی پارس به نام خاتون بانوس این نیایشگاه در فاصله 120 کیلومتری شمال غربی یزد و در جنوب شهر اقدا و در بین دره‌ای از کوهستان‌های اقدا به نام زرجو بافه شده است چند روستای کوچک در نزدیکی در نزدیکی این نیایشگاه وجود دارند که ساکنان آن روستاها با آب چشمه به کشاورزی می پردازند. از روز مهر تا ورهرام در ماه تیر زرتشتیان همچون بقیه نیایشگاه ها در این مکان حضور می آبند. نیایشگاه در کنار مسیر رودخانه فصلی وجود دارد و در دامنه کوه مجاور نیایشگاه ساختمان هایی به نام خیله ساخته شدند تا خانواده ها برای سکونت در زمان ویژه پیر پارسبانو از آنها استفاده نمایند. مراسمی که زرتشتیان در پیر پارسبانو دارند، همانند مراسمی است که در میایشگاه های دیگر برپا می شود و بیشتر به آن اشاره شده است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 جشن مهرگان روز مهر از ماه مهر دهم مهر واژه مهر پیمان و دوستی معنی می دهد در ایران باستان جشن مهرگان پس از نوروز دارای اهمیت ویژه‌ای بود دلیل آن این است که هر دو آغاز فصلهای سال را نوید می‌دادند نوروز آغاز تابستان و مهرگان آغاز زمستان را به هر ماه می‌آوردند زیرا در آن زمان سال به دو فصل تقسیم شده بود. فصل اول تابستان بود که از جشن نوروز شروع می‌شد و هفت ماه ادامه داشت و فصل دوم زمستان که از جشن مهرگان آغاز می‌شد و پنج ماه ادامه داشت. جشن مهرگان که از روز مهر شروع می‌شد تا شش روز پس از آن ادامه میافت و جشن و شادی برپا میشد. انگیزه ای که به پیدایش جشن مهرگان در تاریخ ایران نسبت میدهند پیروزی ایرانیان بر زهاک ستمگر به رهبری کابه آهنگر است که او را در بند آوردند و فریدون را به عنوان رهبر خود برگزیدند. اکنون نیز زرتشتیان در روز مهر از ماه مهر به آتشگده و نیایشگاه ها تا با تهیه خوراکی های سنتی از یکدیگر پذیرایی کنند. و با نیایش و برنامه های فرهنگی مانند سخنرانی های ملی و آینی، سرود، شعر و دکلمه جشن مهرگان را با شادی برپا می‌دارند. در برخی از روستاهای از جشن مهرگان در تقویم غیر فصلی برگزار می شود. بعضی از خانواده‌ها خوراکی‌های سنتی گوشت بریان شده گوسوند و نوب نان مخصوص تهیه می‌کنند و با آنها خیرات انجام می‌دهند. در برخی از روستاها جشن مهرگان با ساز و گشت نیز همراه است. به این ترتیب که در روز پنجم پس از مهرگان گروهی از اهل روستا که بیشتر آنها را جوانان تشکیل می‌دهند در محل آدریان و یا سرچشمه قنات گرد میآیند و یکی از هنرمندان روستا به وسیله سرنا و هنرمند دیگری با اربونه یا دف گروه را همراهی می کنند آنها با هم حرکت می و از یک سوی روستا و اولین خانه شروع می و با شادی به خانه ها وارد می شوند کدبانوی هر خانه نخوست آینه و گلاب می‌آورد. اندکی گلاب را در دست افراد می‌ریزد و آینه را در برابر چهرهی آنها نگاه می‌دارد. سپس آجیلی را که قبلا فراهم نموده است به همه تعارف می‌کند. این آجیل مخلوطی از تخمه کدو، آفتابگردان، نخود کشمش و یا یکی از آنهاست. افسون بر اینها گاهی نیز با شربت و یا چای پذیرایی خود را انجام می دهند آنگاه دهموبد یا یکی از افراد گروه ساز وگشت که صدای رسایی دارد اسامی کسانی را که پیش از این در این خانه سکونت داشته و اکنون فوت کردن باز می گوید و برای همی آنها آمرزش و شادی روان آرزو می کند در اغلب خانه ها بر روان شخصی درود فرستاده می شود که قنات آب را در آنجا دایر نموده است و سپس از بازماندگان این خانواده نیز نام میبرد برد که همکنون در خانه به سر برند و چراغ آن را روشن نگه می‌دارند و برای آنها نیز آرزوی دیرزیوی و شادزیوی می کنند بقیه افراد گروه ساز نیز ایدون باد و یا شاد باش میگویند و هر دو مورد بیان شده را میپذیرند. پس از آن دهموبه بشخابی از لوک را از این خانه دریافت می کند و در دستمال بزرگی یا چادرشب که بر کمر بسته است می ریزد و از این خانه با ساز و شادی بیرون میآیند و به خانه های بعدی میروند تا ساز و گشت را در همه خانه ها انجام دهند، و چنانچه در خانه بسته و کسی در آن ساکن نباشد افراد برای لحظه‌ای در بیرون این خانه می و با بیان اسامی درگذشتگان این خانه بر روان و فروهر آنها نیز درود میفرستند. در پایان ساز و گشت در روستا، مقدار زیادی لرک از خانه ها شده است. اکثر خانواده ها همراه با لرک مقداری پول را نیز به ده موبد می تا در حزینه های آدریان و گاهنبار خانی داشته باشند. همچنین در بعضی خانه ها مقداری میوه هم به گروه سازوگشت می دهند تا آنها را به آدریان ببرند. گروه سازوگشت آنچه را از خانه ها فراهم کرده است با خود به آدریان نیاورد. در تالار آدریان موبد نیز شرکت می کند و آفری نگاه, نگاه همبار به نام هماروانان می سراید هایی که گوشت بریان نیز تهیه کردن مقداری از آن را به آدریان میفرستند. روز قبل در آدریان نسبت به جمعیت روستا نان مخصوص لوگ نیز تهیه شده است گوشت های بریان شده را به قطعه های تبدیل می و با مقداری سبزی در میان دو عدد نان لووک می‌گذارند. ده هنگام اجرای گاهمبار میوه را با کارد به قسمت های کوچکی تبدیل می کنن. پس از پایان مراسم به همه میوه تعارف می شود و به هر نفر مقداری لور و نان لووک با گوشت می و جشن مه را به پایان می‌برند. گاه همبار یا سرنگا روز 8 تا روز اناروم در ماه مهر 20 تا 25 مهر نام این همبار از واژه اوستایی آیاسریم گرفته شده است یعنی آغاز سرما و زمان برگزاری آن در زندگی کشاورزی و پربری هنگامی است که های گوسفند از های تابستانی به محل زمستانی خود باز می‌گردند. در باور سنتی زرتشتیان نیز هنگامی است که خداوند گیاهان را آفریده است. این گاهنبار نیز اکنون همانند گاهنبارهای چهره دیگر و با همان شیوه در خانه و یا تالارهای عمومی برگزار می شود. جشن آبانگان روز آبان از ماه آبان چهارم آبان واژه آبان آب و هنگام آب معنی می دهد و جشن آبانگان جشن مربوط به آبهای روی زمین است در پیدایش جشن آبانگان گروهی از پژوهشگران بر این باورند که در پی جنگ دراز که بین ایران و توران روی داد و افراسیاب تورانی دستور داد تا کاریزها و نهرها را ویران کنند. پس از پایان جنگ، پسر تحماس که زونام داشت دستور داد تا این کاریزها و نهرها را لایروبی کنند و پس از این لایروبی، آب در کاریزها روان گردید و مردم باز آمدن آبها را جشن گرفتند. در روایت دیگری آمده است که پس از هشت سال خوش سالی در ماه آبان باران شروع به باریدن نمود. آنگاه بیماری و فقر مردم تمام شد و از آن زمان جشن آبانگان پدید آمد. به هر حال اکنون زرتشتیان مانند بقیه جشن های ماهیانه جشن آبانگان را گرامی می‌دارند. در برخی از روستاها که هنوز آب در جوی قنات وجود دارد، به کنار آب روان می روند، نیایش می کنند و اهورا را مورد ستایش قرار می دهند. در شهرهای بزرگ زرتشتیان به تالار آدریان می روند، در باره فرصفه جشت ها سخن می گویند و جشن آبانگان را با برنامه های شاد برپا می دارند. جشن آزرگان روز آذر از ماه آذر سوم آذر ماه ماجه آزر آذر که آتش معنی می دهد یکی از چهار عنصر پاک کننده در نزد زرتشتیان است که آنها عبارتند از آب، باد، خاک و آتش است از آنجا که زرتشتیان همواره آتش را که بهترین و سریعترین انصر پاک کننده است گرامی داشته و آن را سمبول روشنایی و گرما میدانند به همین دلیل برای نیایش مزدا به آتشکده یا جایی که روشنایی وجود دارد روی میآورند درگاه شماری زرتشتیان روز نهم از هر ماه آذر نام دارد و در ماه آذر هنگامی که روز آذر فرامی رسد آن را جشت می گیرند اغلب با لباس آراسته و تمیز به آتشکده و آدریان میروند. نیایش های روزانه خود را انجام می دهند و برخی با سرایش آتش نیایش از اوستا جشن آزرگان را گرامی میدارند. مراسم شب چله روز اناروم از ماه آذر 24 آذرما. در ایران باستان و گذشته‌های دور پیش از آشو زرتشت پیامبر قوم آریا و در میان مردمانی که زندگی خود را با کشاورزی و دامپروری می‌گذراندند تضادهای طبیعی مانند سپیدی و سیاهی، روشنایی و تاریکی، روز و شب و گرما و سرما و تزادهایی در خوی انسانی مانند خوبی و بدی، دوستی و دشمنی آشنا شده بودند و در باور خود آنچه را که برای زندگی مفید قرار می گرفت از جلبه های خدای خوب و آنچه را که بد و زیاناور بود از جلبه های خدای بد می پنداشتن. به همین انگیزه آنها روز و روشنایی را بیشتر دوست می داشتند چون هنگام کار و کوشش، خوشی و بالندگی بود و با فرارسیدن شب آتش می تا جلوه های بد زندگی پدیدار نگردد و در شبهای دراز زمستان دور آتش گرد میآمدند تا روشنایی را اقصوم سازند و چون درازترین شب سال یعنی آخرین شب از ماه آذر فرا می رسید به انگیزه اینکه که از فردای آن شب روشنایی بیشتر خواهد شد و روزها دراستر خواهد بود شادی می کردن. در گذشته ایرانیان میوه های راکتان زمان سال مانده بود با آجیل و های دیگر فراهم مینمودند و همه با هم تا پاسی از شب را با شادی و سرور میگذرانند و با این شیوه به پیش باز چله بزرگ میرفتند که از پردای آن روز شروع می و تا جشن سده، یعنی چهل روز ادامه داشت و زمانی بود که سرمای واقعی زمستان فرا میرسید. پس از آن چله کوچک آغاز می گشت. یعنی سرمای زمستان کاهش می آفت چله کوچک از روز پس از جشن صده شروع می شد و تا بیستم اسفند ماه ادامه داشت و این هنگامی بود که سرمای زمستان به آرامی کاهش می و پس از آن شکفتن شکوفه ها فرارسیدن بهار را نوید می‌دادند. اکنون نیز زرتشتیان در, در شب چله که آخرین شب از ماه آذر است، گرد هم می‌آیند. خشان و آشنایان در یکی از خانه‌ها که اغلب خانه بزرگ‌ترها به ویژه مادر بزرگ یا محل مناسب دیگری است، با هم دیدار می‌کنند. هر خانواده میوه‌هایی مانند انار، هندوانه، خربوزه، سیب به و انگور را تهیه می کنند و با خود به جشن شب چله می آورند. در بین میوه ها هندوانه از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا بعضی از آنها باور دارند که اگر مقداری هندوانه را در شب چله بخورند، در سراسر چله بزرگ و کوچک یعنی زمستانی که در پیش دارند سرما و بیماری بر آنها اثر نخواهد گذاشت غیر از میوه گاهی آجیل و شیرینی و شربت نیز در خوراکی های شب چله وجود دارد. تا پاسی از شب همه دور هم مینشینند گاهی مدر بزرگ داستان های شیرین روزگار گذشته را برای بچه ها تعریف می کند. پدر و یا شخص دیگری شاهنامه می‌خوانند و از حماسه های افتخار آفرین ایرانیان سخن می‌گویند. همه با شادی و خورمی شب چله را می و با نیایش گاه اوشهن شب را همراهی می کنند و گاهی آن را به سفیددم تبدیل می نمایند. در گذشته آش و روز خور از ماه دی پنجم دیما به روایت برخی از نوشته های زرتشت پیامبر ایرانی پس از پایان رسالت خود که بخشی از آن آموزش راستی و راستگاری و آرامش به انسانها بود در شهر برخ به سر می بود. او هفتاد و هفت سال از عمرش میگذشت و در آتشکده شهر برخ به آموزش و راهنمایی نمایی انسان پرداخت و این هنگامی بود که گشتاس به کیانی فرمان آن سامان را به عهده داشت. گشتاس و پسرش اسفندیار از برخ که پای تخت آن زمان بود خارج شده بودند و فرمان روای تورانی اجاسب که دشمن دیرینه ایرانیان بود از موقعیت استفاده نمود و تور توربراتور فرمانده سپاه خود را با لشکری بسیار به ایران فرستاد لشکر تورانی دروازه های شهر بلخ را با همه دلاوری های ایرانیان در هم شکست و هنگامی که زرتشت پیامبر ایرانی با راز و گروهی از پیروانش در آتشکده بلخ به نیایش مشغول بودند با یورش لشگریان مهاجم همگی جان باختند آن روز خوری زد و دی ماه بود زرتشتیان برای پاسداری از ارزش‌های نیک آموزش‌های پیامبرشان زرتشت در روز خوری زد و دی ماه به آدریان و آتشکده روی می‌آورند و نیایش پروردگار یکتا می‌کنند در برخی از محله ها زرتشتیان شب قبل از خوری زد نان تنوری تهیه می کنند. آش خیرات و خوراکی های سنتی فراهم می کنند. در روز درگذشت آش و زرتشت با حضور موبدان آفرینگان می و در نیم روز همه پذیرایی می شوند و گاهی آش خیرات در ظرف مخصوص می ریزند و آنها را به خانه ها می دهند. در برخی از روستاهای یزد در خانه خود سفره مراسم در پسکم مس میگسترانند نمادهایی از امشاس پندان را بر آن میگذارند عود میسوزانند و چوب صندل و کندور بر آتش مینهند تا بوی خوش پراکنده شود بانوی خانه خوراکی های سنتی تهیه میکند و همه اهل خانه با نیایش خود به روان و فروهر پیامبرشان درود میفرستند. در شهرهای بزرگ گرده همایی در تالار آدریان برپا می شود و برنامه های فرهنگی در جهت شناسایی شخصیت پیامبر ایرانی و پیام رست داری بخش او برگزار می شود. از اون روز تا مروز پژوهش بانگارش کورش نیکنام کاری از مجله اینترنتی آقای بوف و تولید کتاب های صوتی پرشنگ با بوف و پرشنگ, پرشنگ بوف و آقای بوف و جشن دیگان روز دی از ماه دی بیست و آزر دوم نهم، هفدهم همه دی ماه دی آفریدن و آفریدگار معنی می دهد و در ماه دی غیر از نخستین روز ماه که ارمز نامیده می شود و نام خداونده است سه روز دیگر بنام های دیبادور، دیبه مهر و دیبدین وجود دارد. بنابر این جشن دیگان برابر است با یکی از این روزها در ماه دی که دوم، نهم و هفدهم در تقویم خورشیدی است. در ایران باستان نخستین جشن دیگان در ماه دی یعنی روز عرمس و دی ماه روز نیز نام داشته است. و در این روز که روز پس از شب چله بزرگترین شب سال بوده است پادشاه و حاکم دیدار عمومی با مردم داشته است اکنون زرتشتیان در برخی از شهرها و روستاها یکی از روزهای دی در ماه دی و یا همه آن را جشن می‌گیرند همانند جشن‌های ماهیانه دیگر کوشش می‌کنند تا در محله‌های عمومی مانند تالار آدریان و آتشکده گرد هم و جشن دیگان را با سرور و شادمانی برگزار نماید. گاهن باره می بیاریم قا. روز مهر تا ورهرام از ماه دی ده. دهم. تا چهاردهم همه دیما گاهنبار چهر پنجم در هر سال می میدیاریم است و این گاهنبار از روز مهر تا روز ورهرام از ماه دی برگزار می شود دیاریم یعنی میانه آرامش و در زمانی برگزار می شود که هنگام آرامش و استراحت کشاورزان و دامداران است و سوی دیگر در باور سنتی زرتشتیان هنگام آفریده شدن جانوران بر روی زمین است. زرتشتیان این گاهنبار را نیزمانند بقیه گاهنبارها که شرح آن داده شد به مدت پنج روز برگزار می کنند. جشن بهمنگان روز وحومن از ماه بهمن بیست و ششمه دیما بهمن یا وحومن از واجه وحومنه در ابستا گرفته شده است که منش نیک معنی می دهد و درگاه گاه شماری سی روزی زرتشتیان نام دومین روز و پس از روز اورمزد قرار دارد بهمن یکی از امشا سفندان یا به عبارت دیگر یکی از فروزه ها و صفات احورا مزداست که در گاتاهای آشو زرتشت بسیار به این واژه بر و در واقع زرتشت پیامر ایرانی برای دریافت پیام های از وهمان یاری میگیرد وهمان یعنی اندیشه نیک، خرد خداداده و آشو زرتوشت پیام های الهی خیش را به وسیله خرد مقدس و نیک اهو را داده دریافت می کرد. در گذشته این جشن را بهمنجه نیز می ولی کمتر اطلاعی از چگونگی برگزاری این جشن در روزگار پیش در دست است. اکنون زرتشتیان همچون جشن های ماهیانه دیگر جشن بهمنگان را نیز پاس می‌دارند و با گرد همایی و نیایش در آتشکده و نیایشگاه ها بهمنگان را جشن میگیرند و سپس به شادی و سرور میپردازند جشن صده واژه صده از ریشه صد در زبان پهلوی آمده است و معنی آن عدد 100 میباشد. هنگامی که ایرانیان سال را به دو فصل تابستان و زمستان تقسیم کرده بودند از آغاز فروردین تا پایان مهر ماه را تابستان و از اول آبان تا پایان اسفند را زمستان مینامیدند و هنگامی که 100 روز از زمستان میگذشت و روز دهم ده بهمن فرا رسید، آن را صده مینامیدند و جشن می‌گرفتند بابر آنها این بود که سرمایه زمستان از آن پس به آرامی کاهش خواهد یافت. در این روز به دشت و صحرا روی میآوردند آوردن، هیزم و خار و خاشاک فراهم می کردند و با فرا رسیدن شب آتش بزرگی می افروختن و به امید اینکه روشنایی که از جلوه های است با فرا رسیدن روز بعد افراد به شادمانی می پرداختن. روایتی که به جشن صده در تاریخ ایران باستان نسبت میدهند، ماجرای پیدایش آتش توسط حوشنگ شاه است که شرح آن در شاهنامه فردوسی آمده است. جشن صده پس از اسلام نیز در بسیاری از شهرهای ایران برپا می گشت. چنانکه تاریخ اشاره می کند، بزرگترین سده پس از اسلام در سال سی و بیست هجری و در روزگار مرداوی جبن زیار دیلمی و در کنار زاینده رود اسفهان برگزار شد. اکنون زرتشتیان در همه شهرها و روستاها صده را جشن میگیرند. زرتشتیان کرمان جشن صده را با شکوه بیشتری برپا می دارند. در گذشته، آتش صده در روستای غنات غستان در جنوب شرقی شهر کرمان که در نزدیکی ماهان قرار دارد و نیز در بابا کمال که روستایی در شمال شرقی کرمان است برگزار می کردند. ولی اکنون آتش جشن صده در کنار باغچه بوداغ آباد در شمال شرقی کرمان روشن می گردن. از چند روز قبل از جشن صده جوانان و نوجوانان هیزم مورد نیاز را فراهم می کنند و آنها را به محل برگزاری جشن می برند و توده بزرگی از هیزم را روی هم انباشته می سازند. در پس این روز جشن سده، بانوان زرتشتی با حضور در محل برگزاری جشن سیرو یا سیرو و خوراکی های سنتی تهیه می کنند. در تالار بزرگ باغچه بوداغ آباد های گوناگون و شاد با حضور مردم انجام میپذیرد. گروه زیادی از اهالی کرمان نیز در خیابان های بیرون از تالار و اطراف محلی که آتش سده افروخته خواهد شد، گرد میآیند تا به نوعی در بر برپاداشتن این جشن ایرانی شرکت داشته باشند. پس از پایان مراسم در تالار و هنگامی که آخرین پرتوهای خورشید زمین را ترک میگوید ستن از موبدان در حالی که لباس سفید برتن تن دارند برای شعله ور نمودن هیزم ها به آرامی حرکت می کنن. ده موبد نیز آتشدانی در دست دارد که در آن آتش افروخته است و همراه با جوانان سفید پوش که مشعلهای روشن با خود دارند، موبدان را همراهی می کنند. موبدان بخشهایی از عوستارا می سراید. این گروه سه بار در گرداگرد توده هیزم میچرخند و پس از آن پیرامون توده هیزم می ایستند و به آرامی و هماهنگ به سوی خرمن هیزم میآیند. ده موبد به وسیله آتش موجود در آتشدان، و جوانان سپید با یاری از شعله مشعلها هیزم را آتش می زند. گروه موزیک از آغاز تا پایان آهنگهای شاد می نوازد و مردم با شادی شکوه شعلور شدن آتش صده را جشن می گیرند. و هنگامی که تاریکی شب در حال شکل گرفتن است روشنایی آتش صده برای لحظاتی پیروزی خود را در مبارزه با تاریک به نمایش می‌گذارد. شعله‌های آتش سده آرام آرام و با حضور گروه زیادی از مردم کرمان به خاموشی می‌گراید و همه به این امید که تا جشن سال دیگر روشنایی و گرمی در کانون خانوادگی خود داشته باشند به خانه های خود باز می گردند. پرسه‌ی همگانی روزه اورمزد از ماه اسفند 25ام بهمن روز اورمزد از ماه اسفند نیز یکی از روزهایی است که در گاهشماری زرتشتیان پرسه همگانی نام گرفته است در این روز زرتشتیان ساکن در شهرهای بزرگ مانند تهران با آگهی که از سوی انجمن زرتشتیان آن شهر به خانه ها ارسال می شود و اسامی در سال گذشته در آن آمده است به تالار آدریان می روند و در مراسم پرسخانی شرکت می نمایند. قهوه و نباد از سوی انجمن فراهم شده است. کسانی که برای پرسه می آیند مقداری قهوه و یا نبات برمیدارند و به روان درگذشتگان درود می موبدان موبدن گاتاها و عوستا می و سخنران ها نیز در موضوعهای گوناگون دینی و آینی صحبت می کنند. در یزد و آن مانند پرسه همگانی ماه تیر، هرگاه یکی از اعضای خانواده از سال گذشته تا روز پرسه همگانی ماه اسفند فوت کرده باشد در خانه او مراسم پرسه برپا می شود. بهبه و نبات، سینی میوه، کلچه مود و آتشدان آتش فراهم می گردن. آشنایان و خیشان برای شادی روان درگذشتگان به خانه هایی که در آن مراسم پرسه برپا شده است. هر نفر چند شاخه سبز مرد را با خود می آن را در پسکم مس می گذارد و برای چند لحظه می نشیند. بازماندگان این خانه چای یا شربت به آنها می دهند. سپس قهوه و نبات بر می دارند و از این خانه خارج می شوند و شاخه های مرد را به نشان تداوم زندگی به خانه های دیگر می برند که آنها نیز پرسه دارند. جشن اسفندگان روز سپندار از ماه اسفند بیستم بهمند. سپند یا سپندارمز در ابستا به صورت سپنده ارمانیتی آمده است. این واژه معنی فروتنی و بردباری دارد. سپنده ارمانیتی نام یکی از امشا سپندان و نام پنجمین روز در ماه روزه زرتشتیان است. امشا سپند سپندارمز در نقش مادی خود، نگهبان زمین است و از انجا که زمین مانند زنان در زندگی انسان نقش باروری و باردهی دارد جشن اسفندگان برای ارج نهادن به زنان نیکوکار برگزار می شود در گذشته و در برخی از نقاط سرزمین ایران در این روز بانوان نباسهای نو می پوشیدند زنهایی که مهربان پاک دامن پرهیزگار و پارسا بودند و فرزندان نیک را به جامعه تحویل میدادند مورد تشویق قرار میگرفتند در روز جشن اسفندگان زنها از مردان خود هایی دریافت مینمودند آنها در این روز از کارهای همیشگی خود در خانه و زندگی خانوادگی معاف میشدند و مردان و پسران کارهای مربوط به زنان در خانه را در روز جشن اسفندگان انجام می‌دادند. اکنون نیز زرتشتیان جشن اسفندگان را به نام زنان نیکوکار و پاکدامن گرامی می‌دارند. در برخی از شهرها و روستاها این روز را به نام روز زن و روز مادر زرتشتی جشن می‌گیرند. زرتشتیان در تالار آدریان حضور می‌یابند. نقش بانوان در فرهنگ زرتشتی توسط سخنران ها بیان می شود سرود برای عرج نهادن به بانوان نیکوکار خوانده می شود و جشن اسفندگان با شکوه ویژین برپا می شود هم از پت می دنگاه. در روز اهنو تا وهیشتوایش توایش در ماه گاتابیو بیست و تا بیست و اسفند ششونون و آخرین گاهمبار در سال گاهمبار هم, هم از پت می دیم گاه است که به گاهنبار پنجه یا پنجی هم معروف است و در پنج روز پایان سال که ماه گاتاویو نام دارد برگزار می شود واژه همسپت میدیم برابر شدن روز و شب معنی می‌دهد. این گاهنبار در اوستا با واژه آرتور کرسنه آمده که آرتو به معنی راستی و درستی و کرسنه به معنی روش و کردار است. در باور سنتی زرتشتیان زمان گاهمبار هم همسپت میدیم گا هنگام آفریده شدن انسان از سوی خداوند و پایان آفرینش است. گاه گاهنبار پنجه را در پنج روز پایان سال مانند گاهنبارهای دیگر برپا می دارند و خوراکه های سنتی تهیه می کنند و گاهنبار را در خانه یا در تالار برگزار می نمیند. علاوه بر اینها چون ادهی باور دارند که میزبان فروهر در گذشتگان نیست هستند. پیش از گاهنبار همه جا را تمیز می کنند و خانه و کاشانه خود را صفا می تا فروهرهای درگذشتگان را خشنود سازند و آخرین روز پنجه چون که در آغاز این نوشته آمده با مراسم ویجهی مقدار هیزوم بر بالای بام خانه فراهم می و در سفیده دم روز بعد آتش را روی بام خانه روشن می کنند و بازگشت فروحرها را بدرقه می نمایند زمانی برگزاری پنجه در برخی از روستاهای یزب با گاه شماری بدون کبیسه و در پایان ماه تیر برگزار می شود در روستای شریف آباد اردکان برخی از جوانان در زمان پنجی اقدام به ساختن کو و کپی با گل رس می نمایند هر پسر و دختر گل تهیه تحییه می کنند. آن را با مقداری آب مخلوط می کنند و به هم می ریزند تا خمیر گل به دست آید. ساختن کوه توسط پسران انجام می گیرد. کوه در واقع آتشده است که دسته افقی دارد و دو جای کوچک کاسمانن در آن درست شده است. در هنگام استفاده از کوه در یکی از آنها مقداری آتش سرخ قرار می دهند و در جای دیگر که کوچکتر از است مقداری کندر و چوب سندل می ریزند دختران با خمیر گل کپی درست می کنند کپی به شکل نیم کره است که کنفتی آن حدود 10 تا 15 متر است سپس کوه و کپی را با گل سفید آب شده به رنگ سفید در می و آنها را در پسکم مس در کنار بقیه چیزها قرار می دهند بر روی کپی ها های ایجاد می شود و شاخه از دیاه ریحان و زلفلوتی را در آن قرار می دهند و دور شاخه ها را با دستمال ابریشمی سبز رنگی می پوشانند. در آخرین روز پنجه و غروب آفتاب همراه با هیزم و چیزهای دیگر کوه و کپیها را نیز به پشت بام میبرند. پس از آتش افروزی در سفید روز اول سال و پس از آن که آب و آویشن در اطراف بام خانه می ریزند یکی از کپیها را در کنار ششه یا سبزه و مرد بالای بام خانه باقی می گذارند. پس که کوه را به بالای بام خانه برده بودند. مقداری آتش سرخ را بیرون می و آن را در جای ویژه کوه می گذارن. دختران نیز کوپی ها را با خود به پایین می آورن. آنها دستمال سبز ابریشمی را از روی کوپی باز می کنند و سر خود می و با این کار سبزبختی را در سال نو آرزو می کنند پسران آتش درون کوه خود را کنددی و چوب صندل بر آن نهادن و بوی خوش پراکنده می سازن به آدریان روستای شریفااباد میبرند و آن را به آتش بود میسفارند و کوه خالی شده را با خود به میدانی در روستا کنار آدریان میآورند. همه جوانان میآیند تا در مسابقه کوه و کپی شکستن شرکت نمایند. هر نفر، با نفر دیگر در مسابقه کوه ها و سپس کپی ها را به هم می‌زنند تا یکی از آنها شکسته شود کسی که کوه یا کپی او سالم می‌ماند با دیگری مبارزه می‌کند و در پایان این مسابقه یکی از کپی ها و یکی از کوه ها که محکمتر و تر ساخته شده است باقی می‌ماند که صاحب آن را برنده معرفی و به دیگران اعلام می کنند. و به دیستان زرتشتیان مراسم خود را از جشن نوروز در یک سال خورشیدی با سرور و شادمانی کنند و در پایان سال با برگزاری مراسم گاهمبار هم از پت می دی با شادمانی به میزبان فروهرها می روند و آن را به جشن نوروز سال دیگر پیوند می دهند Thank you.